اللهم صلی اللهم محمد و عالم محمد عوض بالله من الشيطان الهین الرجیم بسم الله الرحمن رحمه سلام علیکم از عدم احترام و شما بردرم و خواران بزرگوارم یه خورده فاصله افتاد بینیم جلسات ما تهران نبودیم شهرستان برنور دشتیم اونتا این جلسات جلسه مهمیه عرض کردیم تو سلسل جلسات با عنوان کوینم زحمت بگیرد صدا رو سلسله جلسات به عنوان اینک آخر زمان بخشی از همون رواهت عهده قراره به این دهه پیش رو بپردازیم و قدری راجب دنیایی که درش هستیم واقع بینانه تر صحبت بکنیم و آنچه که میخواد رخ بده رو بشناسیم مطالبی که اینجا خدمت شما عرض میکنم و بیان خواهد شد خب هر چیزی را هم نمیشه گفتی یعنی چون عمومی بیان میشه بدونید ملاحظاتی هست بالاخره دشمن هم میشنوه ممکنه تدبیر کنه اما همین مطالعه که میخوام خدمت میگم مگم خیلیش هم مسئولین نمیدونن عرض کردم دهه پیش رو خیلی از معادلات جهانی تغییر خواهد کرد و ما با دنیای متفاوتی روبرو خواهیم بود به عنوان یک کشور گذار یک جریان تمدنی گذار باید جایگاه خودمون رو تثبیت کنیم. حالا این اتفاقات منجر به وقایع و حوادث قبل از ظهور شد شد. نشد هم ما باید برنامه ریزی داشته باشیم. یک جوری باید برنامه کنیم من میرد من یک جوری نماز بخون سال سلا تا مودعا انگار آ... نماز وداعته آخرین نماز عمرتو میخوای بخونی بمیری اما یک جوری برنامه کن انگار هزار سال میخوای عمر کنی اینا قابل جمع با هم از این جهت عرض میکنم فالیز جلسات جلسات نه یک جلسات آخر زمانی به معنای دینی شه خیر بلکه جلساتیه که کاملا واقع بینانه راجب آینده کشورمون رو خواهم صحبت کن و دنیا جلسه قبل با توجه به اینکه که وعده صادق دو اتفاق افتاده بود و اینکه پاسخ رژیم چه میخواست باشه از صحبت میکنم من بخشی رو اختصاص دادم به مسائل پیش رو و سریع و زود گذار. یعنی توی هفته آینده چه خواهد شد اما عموم این مسائل مسائل راه بردی ریشهی و مهم میست خب این جلسه میخوام مسائل اقتصادی رو بررسی بکنم و یه خورده راجع به عباد پیچیده تر و پنهانتر ماجرا صحبت بکنم ببینیم چه فرصت های پیش روی جمهور این بحثایی که داریم انجام می کنم همه درد مردم، شما می به درد خوره، هم به درد مسئولین امنیتمون می خوره. خب که از بنده مشاوره خواستن من تو جلسات خصوصی خیلی ریزتر با دیتیل مسائل رو بیان کردم. اما خب دانستن شما خوبه. چون من فهمیدم وقتی مردم آگاه میشن جلوی تحرک جریان نفوذ گرفته میشه چون هر جا بخوان کاری بکنن آثارش بزنه بیرون مردم متوجه میشن مردم زینف نیستن مردم نمیشه ترسوندشون، مردم نمیشه ازشون آتو گرفته اونا هر کسی هر کنجی ممکنه آلارم بده این خوبه این آگاهی افضایش آگاهی بسیار بسیار خوبه خب اگر کسی مسائل دنیا رو مسائل سیاسی رو همین جنگ بدون لحاظ کردن مسائل اقتصادی تحلیل بکنه نه تنها نادان و جاهله که جنایت کرده شما با کسانی مواجهید که مثل شما الزامن ایدولوژیک فکر نمی کنن. آخرتشون همین دنیاشونه همین دنیا به سود در همین دنیا فکر میکنن بله ممکنه صحیح نیست ما میدونیم نگاهی آخر و زمانی دارن اینجلیس ها دارن اما اینا همه دنیا نیستن از غذا دین صحیح نیست بیانی دنیا وقتی <تصحیح> از من پرسیدن که احتمالاً اسرائیل کجا رو میزنه گفتم من نمینام من از تصمیم اسرائیلی خبر ندارم اما خاطر تو ماشیدو هم قبلی قبل کم گفتم انرژی رو نمیزنه هستهی رو نمیزنه چه نوع تحلیلیم کردیم ما؟ تحلیل واقع بینانه علل ارز روی زمین اما یه نیم چه تحلیل آخر و زمانی داشتم گفتن حتما خوزستان رو میزنه چرا خوزستان رو میزنه؟ به خاطر اون تحلیل های آخر و زمانی دینی اینا به خاطر که بخواید یه پیشگو ارمی های رو میخواد محقق کنه. برای کی برای چه مخاطب؟ برای مخاطب اسرائیلی؟ و اون مخاطب متدین مذهبیشون که به این جریان رأی دادن اوننا رو آرام کنه؟ برای اون مخاطب هم باید تولیدات داشته باشه این مهمه برای همین عرض کردم امروز تو دنیا تحلیل تکبودی دیگه اصلا جواب نیست و طرف هماغخ خودش نشون داده قطعا جامعه اطراف باید باشه تحلیل میان رشتهی باشه زعباد باشه همه چیز رو باید لحاظ کنه شما تو تحلیل هاتون وابستگی که مثلا حزب نتانیاهو به جریان ارتودکس و مذهبی و تندرو در اسرائیل داره لحاظ کنید بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه صرفاً که مثال در مسئله کسی مناقشه نکنه اینه اینه کسی بگه آقا ایران در سوریه صرفاً برای منافع ملیش حضور داشته است چقدر این تحلیل خامه آه؟ واقعاً دفاع از حرم از زینب بخش جدی از انگیزه ی مجاهدین ما بوده یک نفر بیاد بگی این داعشیه داره خوش هم میتره منفجر میکنه برای چی؟ برای منافع دنیاوی؟ با داره میمیره منطقی این وزنش چقدره؟ تو گروه ها و جران های مختلف وزن نمتفاوت خب من از هند شروع میکنم به خاطر اینکه بعدش میخوام به کوریدور ها بپردازم کوریدور رو عرض کردم چون مفصل پارسال سال راجبش صحبت کردیم دیگه خیلی لزومی نداره اما حالا مسئله جدید تر اگر پیش آمده باشه من می بهش میپردازم باید ببینیم نقش مثلا همین کوریدور عرب که بخشی از پروژه یوتو آیتو بود که از هند بندر بنبعی شروع میشه و تا بندر پیروس یونان میره با مرکزیت و مهوریت رژیم سایونیسی و شهر حیفا و بندر حیفا چیست؟ هند شروع این ماجراست مگه میشه شما هندو نتونید تحلیل بکنید؟ مگه میشه بدون هند بتونید تحلیل بکنید؟ نقش هندی اینجا چیه؟ کاری دارن انجام میدن؟ یه سری چیزها رو شما که بعضا تو شبکای اجتماعی فعالیت دیدید که تو جریان هفته اکتبر به بعد شبکه های اجتماعی هندی ها با اسرائیلیا بودن پررنگ هم با اسرائیلی بودن چرا؟ بچه کشی رو نمی صرف درگیری هندوها با مسلمان هاست. یه دشمن مشترک دارن چی؟ اولا باید به خواستگاه قدرت در هند اشاره کنم الان نان که در هند نخست وزیره این کیه؟ ایشون رو در هند به عنوان قاتل مسلمانان میشناسن سیزده سال سرنخست وزیر ایالت گجرات بود سیزده سال در ایام حکومت او در اون ایالت همون مسلمان کوشیه خاطر تو مشت و اخبار را افتاد این حضم بی جی پی به کشتن گاندی معروفه در هند خودش هم هیچ وقت دوست نداشته اینو خیلی اعلام به ازش بکنه. یعنی یک خواستگاه ضد اسلامی و عقبه مالیش که حمایت مالی میکنه از اینها از این حزب نمیتونم بگم در هم دست با صهیونیست ها یا بگم کلا صهیونیستان از الان از دهه سی و چهل میلادی ریشه های اینا شکل گرفته بخش قابل توجهی از این جریان تابعیت های دوگان سگانه دارند یعنی شما یک مثلث می بینید بین سه تا کشور یک زل هند یک زل اسرائیل یک زل انگلیس یک زل هند یک زل اسرائیل یک زل بلژیک به خاطر چی به خاطر تجارت الماس از قدیم و لعیام شما میدونید، مستحذرید که سهیونیس در تجارت سنگ های قیمتی خصوصاً علماس نقش کلیده نه. دلیلش چیه؟ این به قول ما سی شیمیایی چه اهمیتی داره؟ توان بالایی به شما میده در پولشویی. شما با یه تیکه سنگ انقدی یه دو سه میلیون دلار پول جا بجام کن. یه که سنگی که توی انگشتر جا شده شد یه دیگه که سنگی توی گردنبن جا گذاری شد بدونه که هیچگونی شما ترک بشید بتونن شما رو زیر نظر بگیرن یا فکر کردین این تجارت پرسود و عجیب غریب ساعت ها برای چیه؟ برای فرارهای مالیاتی برای پولشویی یه ساعت طرف دستش میکن چل میلیارد تون پولشه شست میلیارد تان پولی ساعت دستش میکنه هر جا دنیا برن ازش میخوره حتی از این حیث جالب بدین ما هم امکاناتی داشتیم برای دور زدن تحریم مسئولین این گیجه ما رو همین هم کار نکردن فرش های خاص ابریشم ما این بیجگیر داشت میتونست به یه محصولی از این جنس تبدیل بشه نه به اون عدد بلکه کمتران در ایتالیا خیابانی خیابانیش خیلیشون ایرانیین. وقتی میری اونجا همونجا میگن سری فرش رو میخرن یه فرش ابریشمت 6 متری مثل پارچه جا میشه جمع میشه تا میشه توی این چمدون کوچیک جا میشه. چقدر قیمتش 3 میلیارد 4 میلیارد 5 میلیارد. تجارت الاس، اشیاء عتیقه این چیزایی که یهودی‌ها روش دست گذاشتن رو حساب کتاب بوده. بذار من یه خورده عقبتر برگردم ریش اقتصادی رو حل کنم به درد این تحلیل تخیلی که امروز خیلی تو مندم تو توییتر اینورمار به خورده ملت میدن بعضی‌ها من چرا جواب نمیدید میگم مثل زمان دانشگاه بود بعضی موقع دیگه درس مرس نمیخوندیم میگفتی ولش کن وقت نیست یه گوبای پزشکی میبرم. درصره حسابش کنم دیگه میگه ولش کن نمیشه انقدر حجمش رو بر زیاد میگه من از کجای این شروع کنم بحث کنم میشه یه نفر که باش بحث سیاسی داری می‌کنی بعد می‌فهمی بابا یارو خدارام قبول نداره میگه ولش کن من اول بذارن خدا رو برای اثبات کنم انبیا و ادیان و اسلام و تشع ولش کن بحث سیاسی ولش کن بهش میگه سلام نکن قدیم انسان‌های مختلف جوامع مختلف تولیدات مختلف داشت یه کشور معدن داشته، یه کشور نمی‌دونم به خاطر جغرافی خاصش حیوانی در اون پرورش پیدا کرده. یه کشور آب داشته، یه کشور نمچ. مختلف دیگه. اینها محصولاتشون رو با هم دیگه شیر می‌کردن. یارو فکر کنم بعد سه کیسه مثلا نمک بار میزد بره در یه بقالی، فرض پول نمیبود میرفت در یه بقالی، مثلا سه کیسه رو بذاره مثلا چهار کیلو گندم برداره. نمی‌شد دیگه. اومدن روی یه کالایی که همه مشترکاً اجماع کردن طلا چرا؟ به خاطر اینکه حجمش کم بود یعنی انقدر طلا معادل همون چهار کیسه نمک میشد اولا یعنی حمل و نقل مسئله حمل و نقل مهم بوده این من چجور جا جابجا کنم یه ساعت بعد باشه حالا بگو آقا مثلا یک دستگاه مثلا یه ماشین قیمتیه یه ماشین من چجوری بردنم ببرم این من برم اما ساعت میتونم ببرم خود رو که نمیتونم ببرم شد یه سکه؟ همین سکه هم چون خود سکه موضوعیت داشته یعنی اندازه تلاش مهم بود چند گرم طلا یه دینار 425 گرم طلا همین جهودا برمی داشتن بغل این سکه ها رو سمباته می‌کشیدن هی کوچیکش میکردن ازش میخوردن تو بازار طلا جایی که دستشون اینا میشورن طلا ها دستشون رو میشورن نگاه کنید بعضیشون زیرش سطل میذارن <تصفيق> چاه فاضلاب بازار طلا رو فاضلابش می‌خرن به مزایده میذارن به امریکت خود میبرن از توش طلا در میرن میگن دست خورده شسته شده یه طلا داره فکر کنینجا اینا سمباته میگیشتن بقلاش رو برمیداشتن همچنباش یه توییت هم با زدیم برای همین اومدن توی تولید سکیات، ها دورشو شیار گذاشتن شیار شیار این دور سکه ها شیاری که هست برای که فلزش خورده نشه خب تو اون سخنرانی قبل طرفش 10 سال پیش کامل توضیح دادم تو ماجرا که دلار رو توضیح میدادم چه جوری تو دنیا شک گرفت زاینوسا چه جوری این شوالیه ها اقتصاد جهانی برد... به دست گرفتن اونجا براتون عرض کردم که چی شد این اسکناس زاده شد بعد نگهداری این سکه ها یعنی جونت بود دیگه رسما مسافرت میرفتی خفتت میکردن ازت می‌گرفتن آخر چی شد یه هایی که اسلحه دستشون بود گفتن داداش سکهاتو بده ما نگه هم می پولش هم می‌گیریم سن هزار تا سکه در سر سال مثلا ما 10 تا شو برمی‌داریم بابت نگهداریش من دارم پول نگهبان میدم دفتر دستک و فلان رو بهمون عوضش ما یه شعبه مثلا تو تهران می‌خوای سی بریم مشهد یه شعبه تو مشهد داریم از پاریس بریم سی بریم آرسینجوری درست سره یه شعبه توی مارسی داریم این کاغذ رو بگیر ببر اونجا بده سکهاتو تحویل بگیر هم یه نفر دیگه باز کاغذ می آورد این طرف عملاً اندوخته اینا چی بود ثابت بود من این که تقوا خاصی میافتاد یه امضاام روش می‌زدن که آقا بهش بدید این مادل انقدر قد اون امضای هنون رو ها هست <سؤال> یعنی اسکناس صرفا همون اول یه, یه نوعی به بقول یه نوعی چک بوده بعد دیگه طرف می‌خواست بره خرید بکنه دیگه مثلا سکه رو تو جیبش برن بدوزن میره به بانکه میگه آقا من اینو میدم به این نفر منم پشتش امضا میکنم میشه چک اینا می میکن میگوین به خدا صد تو سکرت برو الان بانک بگیر. برو از بانک بگیر. ریشین که بانک چیا از ای رابطه به بنکداری داره یا به بنچ داره به معنی صندلی و مهم نی مهم اینه که افتاد دست اونا. چرا چون شوالی ها بودن، اسلحه داشتن و باید بین سرزمین مقدس بین فلسطین و اروپا دائم رفت و آمد شد بین راه موجب اون ممکنو سرقت شکل بگیره مجبور این کار اون موقع هم همین اقوام بیابانگردی بودن تو اون مسیر و کوهل بودن اینا را اگه خفت میکردن پوستشونو کنده بودن با اونام میرسیم تا همین اینا که آخر زمان دمان چون راجب یعجو جمعجو جمع من حرف خواهیم زداد بسیار جذاب و جالبی بر اولین بار خیلیش مطرم خب این بانکشتارو دیدن عجب این کاغذاشون بیرون چیز پیدا کرده امتیاز پیدا کرده دیگه اون کاغذره میگرف، اون میگه آقا ببین امضا هنوزم میگم این دو تا وزیر امور اقتصاد دارایی رئیس بانک مرکزی دو تا امضا روشه. که تظیینی کنه این معادله انقدر قد که الان نیست این جوکه. خب؟ ماظره شما عرض بشم که آرا آر اینا فهمیدن که کلی طلا همیشه اندخته دارن. روزی مثلا 10000 تا سکه برداشته میشه، 9000 تا گذاشته میشه. فرداش تا میشه، هزار گذاشته میشه. تقریبا مثلا یه میلیون سکه من همیشه دائم دارم گفتن چه کاری بیان با سکه های ملت ما بریم تجارت بکنیم از کجا میخوام بفهمن اینجوری رفتن کردن چقدر؟ دیویس سال دیویس سال با پول مردم اینو پول دار شد بعد که بعد اون مرحل دومه میره زدن نامرده گفتن کی به کیه بیا از این کاغذها امضا بزنیم بدیم بیرون اون از کجا میخوام بفهمن تعداد این کاغذ دست مردم زیاد شد داشت لو میرفت گفتن یه کاری کنیم این کاغذ تو کشور دیگه استفاده میشه بره بیرون شد عرضه های جهانی شکل گرفت پول جهانی همینجوری شکل هنوز هم همینه هنوز که هنوزه علل خصوص در جمهوری اسلامی علل خصوص در ایران بانک ها با پول مردم دارن تجارت کن رقمی که ها به خودشون وام داده اومده بیرون. الان بعضی میگن آقا دو جامعه با از حرفایی که این دوتا گروه افتادن به نو و نئوکمونیست‌ها افتادن به جون هم واقعاً جفتشون هم رو مخن. هر کدوم یه بخشی از حق داره میگه بر همون اصلا میگه بحثشون اصلا دیگه من نمیشن میگن آقا نقدینگی نیست تو جامعه راست میگن. امروز تمام بنگاه‌های کوچک و میانی ما دارن نابود میشن. چند رو من با یکی داشتم صحبت میکردم این آدم پالو داره گفتم قیمت پالو اشگاه چقدره؟ گفت دوازده هزار میلیارد تومان. میگفت برای حقوق چند میلیاردیه آخر ما با کمبود نقوینگی مباشم یعنی چی؟ دقت کنید در زمینی دارید زندگی میکنید که روش بیابونه خار در اومد و یه قطراب میفته پایین همه مثل اون بلنگ صورتیه بود و از داری کردن. جنگ جهانی سرمون یه تشتاب مثلا سرمون یه قطراب اما از زیر این زمین یه در دراب میره این کجاست؟ خلق نقدنی که بانکا دارن همین الان انجام میدن یعنی خلق نقدنی آمله است؟ بله صد در صد از طریق چه؟ پس کو مردم چرا پول دارن؟ این پولو به تو نمیدن دقیقا این خلق نقدنی که بخش امدهش توسط یک خود ها داره صورت میگیره به خاطر چی؟ به خاطر مثلا ایران خودروی ورشکسته یا سایپای ورشکسته رو میخوان به زور نگشت دارن. کی ورشکستشون کرده خودشون. چجوری با قیمته دستوری بعد بهش وام میدن؟ اون بدبخشون سود نداره، نمیتونه وامش رو صاف بکنه. چی میشه؟ دولت براش صاف میکنه. یا وزیر سمت یه وزیر سمتی نامه میزنه. یه خلق نقدنگی بر اون انجام میشه. یعنی ما پول داریم میدیم، خلق نقدینگی میکنیم برای چی؟ برای اینکه دلال‌ها سود بیشتری بگیرن. یعنی کشور ما خود رو ارزان اون تورید کننده خودرو ارزان تر است آن که تمام شده بهای تمام شده داره میده بیرون اونم گرونتر اون یارو گرون مصرف کننده بدبختم هم تر از چیزی که وجود داره داره میخره این وسط پوله کجاست در دلالاست یعنی همچین چیزی هیچ جای کره زمین شما پیدا نمیکنید به حضرت عباس نمیتونید پیدا کنید گشتم نبود نگرد نیست بالاخره یا اینوریه صد میکنه یا اون یا جفت یه نمیشه که دو سر یک معامله ضرر دارن میکنن اون وسطی در حال میکنه <تصفيق> این یک مسئله یه بخشی داره اینجوری بانک داره یه بخشی هم بانک خصوصی داره انجام میده بانک های خصوصی اینجا جلوترن چرا به خاطر این بانک های دولتی روشون اشراف بیشتره چیکار میکنن اون خلق نقدینه چی باید. بانک اگر وام بدهد گوش کنید هر نوع وامی که بانک میدهد خلق پول است برادر من وام وام در بخش دارایی بانک ثبت میشه سند حساب داریش سپرده منو شما بدهیه بانک سالهاست دیگه با متناسب با سپرده منو شما وام نمیده قدیما اینجوری بود بانک وام میده چجوری اینو تبدیلش میکنه به درای بهتون بگم این خلق پول انجام میده چقدر؟ نه دیگه 5 میلیارد 10 میلیارد 2 میلیارد میلیارد 2000 میلیارد آمار بانک اومده بیرون حالا من یه متن آماده کردم بخوام بدم یکی از نوانده بخونه اعنایت داشته باشید؟ دو میلیارد وام داده به شرکت آی خودش اون شرکت مال خودش یه خلق نقدینگی کرد اما باید پس بده دیگه پس هم میده بهتون میگم چجوری این به شرکت آ وام میده همین بانک یه شرکت بی دیگه هم داره که پتروشیمیه معمولا بانک ها این سگانه رو درست میکنن حتما توی پتروشیمی ها سهام دارن حتما خودشون صرافی دارن دقت کنید حتما یه شرکت اینجوری شبشه که آ دارن این شرکت آ وام گرفت میاد چیکار میکنه تو ایران استفاده میکنه مطلقا میبره دوبه میبره ترکیه میبره گرجستان میبره ارمنستان پولو چکار میکنه تو ملک سرمایه گذاری میکنه چجوری پول رو خارج بکنه؟ این شرکت بیه مگه پتروشیمی نبود؟ مگه محصولات نفروخته بود؟ مگه پوله بیرون نبود؟ میگه برش نگردون. همونجا بده به اون ملکه. من اینو میدم به تو. من سادهش کردم و به همین سادگی هم نیستش. صرافی خودشون هم وسط واسط میشه. عملا وامی داده شد خلق پولی صورت گرفت و این خلق پول دقیقا منجر به خروج سرمایه شد همین بخشی که اینا دعوا میکنن با هم متوجه نمیشه این دوتا گروه یعنی نرخ خروج سرمایه ما خیلی بالاست شما وقتی میرید تو ترکیه میرید کشورمون درب و داغون شده به خاطر تحریم ها اما بیشترین زمین رو در ترکیه ایرانیا دارن میخورد یک میلیون ایرانی نه هزار تا یک میلیون ایرانی تردد دائم دارن به امارات. بعد که اون اتفاق رقم زد نگاه کنید بابت خلق پولش تورم به وجود آورده یک قرون از اون پولم مردم نمیبینن یعنی <تصفيق> بونقوی عادی نقدنگیشون پایینه خب با این کار ریال بیارزش میشه ریال که ارزش شد او سرمایه‌گذاریش که جواب بخشی از اون رو برمیگردونه بدهیشو به بانک میده تو قیمت پایین‌تر رو پس میده متوجه شدید؟ چون تورم شد گرفته دیگه قیمت ببین نگاه کن چیزی گرون نشده ارزش اسمی املاک رفته بالا خونه ها اسمشون اسمی دارن گرون میشن در واقع ریال داره ارزش میشه و گرنه مثلا اگه تو توی نارمکی یه دونه خونه داشتی مثلا میخواستی چیزم میدونم توی نازی آباد باش میتونستی دوتا خونه بخری بعد ده سال هم هنوز همین رابطه برقرارره. چیزی گرون ای ریال داره بی ارزش میشه اینا اسم اسمن گرونتر میشن قبلا با بابطین بعد تو تومن میدادی الان دو هزار تا از اونم باید بید. چرا چون اینا بی ارزش شده من سعی میکنم خیلی ساده بگم دوزر شریف میفته دیگه پس این نرخ خروج هست همین کاری که اون سر. 400 سال پیش نا میکردن 300 سال پیش 20 سال پیش الان بانکای خودم دارن انجام میدن با آدرس غلطم میدن عمر چی میگه شرکت دیگه یا روش دیگه شون چیه بر میدارن یه وام میدن میده بانک ها مدت ها که داری کردن یعنی ملک خریدن این کار که خارج از کشور انجام میدادن تو داخل وقتی این اتفاق جلوش گرفته شد متاسفانه رفت یه رینگی بیرون تر خارج اتفاق افتاد و این باعث خروج سرمایه از کشور شد قبلا تو همین داخل ملک میخریدن الان بهشون اجازه نمیدن الان چگار میکنن؟ شعبه میزنن اگه قشنگ شما با ریس بانک صحبت میکنیم میگه که آقا مثلا اینجا یه ملک داریم میای بخریش از ما میگه بعد ببینم اونجا شعبه داریم یا نه اون نزیکیه به بهانه شعبه میخرن ملک بی نه یه خونه منو شما رو مثلا ما خونه هم نداریم خونه شما رو نه یه ملکی مثلا 500 متر هزار متر بالای پایین پاساژ لبه نقش میدونی اینجوری بانک‌ها با دیدی دیگه تو کوچه پس کوچه ها که نیستن بهترین دو نبشونه دو بر و سه بر و اینجوری اخیران چون جلوشون گرفتم گرفتن میان چیکار میکنن انگیزه های باشگاه تفریحی کارمندان ده هزار متر اما شما تو آجودانیه میره دیوارش تمون نمیشه دیگه دیوارش تمون نمیشه یعنی اگه شما اونو بفروشی تبدیلش کنی به یه پاساجی مثلا املاکش رو بفروشی چند دهنه مغازه بلخواه بالو شهرم سودی که از اون درمیاری سودی که از اون درمیاری و به کارمنداد بدی بگی برو هتل برو یه جازات طبعا بیشتر میشه نه اون بخش از تو اون مدل هپس کرد. حالا مدل جدید چیه میای به یه شرکت وام میدی میگی که چی سند میذاری میگی بیا سند بذار داداش پس هم نده عملا وام دادی این ملک رو خریدی چون خرید مشکل بود فهمید چی شد؟ به بهانه که تو پس نده من این رو صاحب این دیگه شون نقطه خب اون کسایی که اینجوری جهان رو چرخوندن بخششون راکفل رام نیدم رو چیلدان همی همین دوتا رو فقط میشنسید نه تقصد نقاط دنیا خانوادههایی اینا شکل گرفتن که دولت تعیین میکنن اینا اینا میتونن جنگ راه بیندازن توی دون کشور به نفع خودشون بداشن تو تحلیل های ما هم هرگز اینا جایی مطلقا نداره من دیدم میگم من ببینم مثلا مناظره دو نفر نگاه میکنم صحبت ها یه نفر میخونم توییت یه نفر میخونم تحلیل ها صرفا دولت حکومتی است اصلا متوجه نیستن چی به چی که بابا تو این رئیس امور نخست تا اینجا مودی که داری میبینی باید بیانی کدام عقبه مالی و سر کار برد مودی خودش تاجره اما عضو کدوم گروه و حلقه است یک اقلیت هشتاد هزار نفره یهودی در هند زندگی میکنیم. یه سری هندی های یهودی در اسرائیل داریم. اینا رابطه این ماجرا هم. ماجرا جالب میشه. نخست وزیر هند همین آمودی سال دو سال جنگ با لبنان جنگ 33 روزه. سروزیر ایالت گجرات بود. دقیقا میخواهم میتونیم همون گروه گجراتی های هندن از اسرائیل دیدار میکنه یعنی یا استاندار میره اسرائیل سال تو جویه 2017 باز هم میره شخص نتانیاهو های اینجا دیگه نخصوزیره خودش میره فرودگاه دنبالش و وقتی میاد این بخشی از صحبت نتانیاهو در مورد این دی داره میگه ما به هند عشق میورزیم ما فرهنگ شما و دموکراسی شما را تحسین میکنیم ما هفتاد سال است که منتظر شما بودیم یعنی هفتاد سال داریم برنامه‌ریزی میکنیم دقیقا از دهه دقیق 30 و میلادی که چی شد یک تاجر الماس هندی با یک زن یهودی ازدواج کرد با رئیس جمهور وقت اسرائیل جلسه گذاشت اون زنش باعث شد. و اینو پاشو به بندر آنتروپ شهر تجارت الماس باز کرد وقتی این اتفاق افتاد آرام آرام هندی اول به عنوان کارگر چون هند کشور الماس. پاشون باز شد به اونجا و تقریبا 60% درصد بازار آنتروپو گرفتن با ازن یهودی ها با ازن یهودی ها میگه ما هفتاست سال منتظرتونیم چیز... برنامه ریزی از قبل صورت گرفته اینا با هم ازدواج کردن تو اصلا این کار مثلا میگه که هند اسرائیل رو رها کنه انگار که مثلا یارو عروسش رو بذاره کنار دو مادرش بذاره کنار نوه‌ش رو بذاره کنار این که دارم میگم مبالغه نمیکنم واقعا با هم دختر ده مثلا دختر گرفتن عموما دو تابعیتی سه هست استقبال کجا تو فرودگاه خود نتانیاهو میره بعد شی جین میاد اینجا رئیس جمهور ما نرفت اونبالش معنی داره استقبالی که عربستانیا از شی جین کردن یا استقبالی که اماراتیا از پوتین کردن یادتون رفته هواپیما بلند کردن اینا چه چیز عجیبه میگه پیغمبر خداست اینجا یک ابو ضرار فرستاد امام ظریفو کی بود فرستاد گفتم باشه تو چارده ژانویه اون جویه ژانویه دو جانبیه دوزاره هیجده او رفت. خود نخست وزیر تو فرودگاه دهلی نو از نتانیاهو استقبال میکنه. یک هیئت اقتصادی صد نفره هم راهشن. 130 نفره. و زمینه های گفتگو چی بوده؟ در حوضای امنیتی. نظامی، فناوری، کشاورزی و راه کریدوری. آقا ما کشوری مهمتر از ایران تو حوزه کریدور در دنیا نداریم. به خود موقعیتمون. موقعیتمون خیلی مهمه. ما مثل قفقاز موقعیتش ما، مثل ترکیه که موقعیتش مهمه. برای ما از همه مهم‌تر. با اون دریا بالامون هم دریا، هر که شرق و غرب بالا رو بعداً اینجورات شه، منطقم بعداً اینجورات بشه. اجلاس کریدوری بود در چین. ما یک نم نف... ما شهردار تهرانو فرستادیم. آیزاگانی رو به نماینده زیرو. ح... رئیس جمهور رفته بودن. نوخوس ت... حد دیگه حداقلش باید وزیرو میفرستادیم. یا شوتیم دیگه. طرف نمی‌دونه میگه اینو اصل کاری فکر کنم مثلا ساب مجلس نباشه. تو نقش خودت علالدین سیفو کنی. بعد چی روی کرد فرهنگی اجتماعی این سفر اگه تون باشه نتانیاهو او رفت با بالیوودیا جلسه گذاشت و یه عکس تاریخی هم گرفتن که آمیت آباچان داشت سیلفی میگرف روی همی چیزام بسته بود رب بین اینا وایستاد و عکس رفت وقتی اینجوری مسئله یه مقصود روابط ایران و روسیه در حوزه نظامی امنیتی همینه فرهنگی نیست اجتماعی نیست اینا برکت بر از اون باشون کن اول فرهنگی اجتماعی چیزو زدن میگه فرهنگی اجتماعی جزء ن... جای نرم جنگ نظامی سخته ببین نظامی امنیتی سیاسی اجتماعی فرهنگی این خطو داشته باشید اینجا تو اوکراین شروع کرد کار کردن فرهنگی اجتماعی شما نجادن با هم فرق دارید شما فلانی روز ذدیت با روس‌ها رو شروع کرد شروع کرد رسید ماجرا سیاسی شد بعد امنیتی شد الان نظامی شده همین کار تو جمهوری آذربایجان داره انجام میده. آهای ما ترکا فلانیم بهمانیم به چی چی چی چی آخرش رسیده به زنگزور ما داریم از مونو برگزار میکنیم از هر رد میشیم اونا ما ازش مونو برگزار می‌کنیم از ارس رد میشن نشون میدن. دیگه رسیده به کجا؟ به این 23 کیلومتری زنگزور که ماجرا کاملا نظامی. اینجا کلان طرف خواب بوده دیگه. دیگه چی شد؟ چرا ماها فهمیم برای که ما فرنگ اجتماعییم؟ شما هرسی سیاسی تو کشورمون نگاه بکنید عمده ورود از اونوره از این سمت کسی ورسی سیاسی نمیرسه ما دقیقاً جریان برعکس بودیم از موارد سیاست شدیم چون ما سنسورمون این طرف این و خوب میشناویم تا یه فیلم میسازن میگیم آقا اینا نه قسط دارن با با با یه فیلم شما میشینید تحلیل می‌کنید فیلم منظورمون نیست پروفسور اون اراده به سرش داره فیلمو می‌سازه همون موقع اون سلفی رو self میفهمن نمیفهمن چیزه دیگه حالا میگم الان که کار به جای نظامی کشیده دارن میفهمن چرا چون سنسشون همینه بعد نظامی امنیتی بشه تا بفهمن بخش سخت و گلدرشت ماجرا برسه میفهمن اینجا بخش نرم متوجه نیست برخلاف رهبر انقلاب که اینجا اینجا حساسه اینا تعطیلن حالا اسپانسر های مالی این آقای مودی و حزب بی جی پی کیان یه دوست من دو تا از اسپانسراشون اسم میبرم یکی آقای گوتام آدانی و موکش آنبانی دو تا هندیه. یکیشون که اصالاتن اهل گجرات احمد آبادیه. اون یکی هم اهل بنبعیه اما بزرگترین شرکتش در گجرات اینا اون تیم گجراتی هان که هندلان تو مشتشونه آقای آنبانی سروتمندترین فرد آسیا تو سال 20 بود. بوده سروتمندترین فرد آسیا قاره آسیا دارایی خالصش 116 میلیارد دلاره. 116 میلیارد دلار. هولدینگ دارن دیگه رئیس چندین شرکتن شرکت اوزه پتروشیمی، نفت و گاز، مخابرات، خرد و فروشی، خدمات مالی، راهداری. برو بیا هر چه بخواید داره. مالک و بنیانگذار پالایشگاه جامنگره. یه شهر در هند. بزرگترین پالایشگاه نفت جهان. روزی 660 هزار بشکه نفت ظرفیتشه که اگه پالش ترکیبی رو لحاظ بکنیم میشه 1.200.000 بشکه مال این یه نفره خب این کجا میخواد نفت بخره چه اتفاق افتاد ما به هند نفت میفروختیم آمریکا نفت ما رو تحریم کرد به هند فرصت داد که نفت ما رو جایگزین کنه اون موقع باید می فهمیدیم. فرصت داد آرام آرام نفت ما رو با کی؟ با تیم این طرفی جایگزین کردن و دستشون زیر ساتور ما بود اگر همون موقع بنده سخنرانی میکردم گفتم همین الان یه جا تحریم کنید نفتو و اگر نه ریز ریز تحریم می شید بعد منت بکشید نفت بفروشید شد یا نشد بکر مثلا خوشحال هم الان شده اون موقع مسخره میکردن اینا کیلیپ تنز میساختن میدادن تو رسانه ها تمسخر کنن تو کانالای خبری مزخرف بنویسن. ایشون صاحب شرکت ریلاینزه نفت خان، گاز طبیع، پتروشیمی، فروشگاه زنجیره پلیمر پولیستر، مواد مسئولات نساجی و شرکت مخابراتی جیو بزرگترین شرکت اینترنتی الان هنده اینترنت پرسور سرعت آورد و قبضه کرد بازار هندو چیزی نیست همه یه میلیارد جمعیت یه میلیارد خورده اون خورده ایش جمعیت ماه همین چی شد این بر پسر شروسی گرفت تو همون شهر خیلی هم کرد کردون از جاستین بیبر تا کیم کارداشیان جزء مدوانه عروسی پسر توفه این بودن از تونی بلر خوصوزیر انگلیس تا ایوانکا ترامب از بیل تا مارک زاکر برگ. تا خواننده ریحانا عروسی پسر این آدم بوده یه تو معادلات شما هست؟ خب چیه این به چه هیچی داشت خرج انتخابات مودی رو داده مودی هم که اومده از کار فقط داره به اینابو پالس می البته خب گردنگیرشون خرابه دیگه تو هندم هم مخالفانشون همیشه این میگم یه موقعی که اومده این رو چند برابر شد میگه نه همه قراردقه ما قانونیه بالاخره که زحمت میکشید تو ستات انتخابات یه چیز رو گیرش بیاد دیگه. خیلی که این همه مخالفت با شفافیت برای چیه چون به یارو میگه بگو الف میگه نه من نمیگم میشه چه میگه اگه الف بگم تا یه باید بگم میدونن گام بعدی شفافیت شفافیت منابع مالی انتخاباتی از الان نمیگن که اونو گردن نگه کل دنیا هم هست از غذای ایرانی شوت و با. هم بدونه که شفاف باشه لو میره تا تو همین تویتر دیده چجور پول باشه میکردن دیگه یه ما روزه باز نخونیم نفر دیگرشون آقای آدانیه گوتام آدانی اینم گزراتیه دارایی خالصش 84 میلیارد دلاره. ایشون بنده خوده یه ضربه عشق مالی خورده رابرت مردک بشت زد چقدر؟ چل 8 دلار. تو توی هفته پول دار رابرت مرداک به یه شرکت مالی یه گزارشه از های و فرار مالیاتی این در قبرس ساماده که تهیه کرد، پخش کرد سهمش شکست متوی. تو یک روز 20 میلیارد دلار، تو یک هفته 48 میلیارد دلار و ایشون آی آدانی زمانی دومین فرد ثروتمند کل جهان بوده. این که دیگه داداش جونجونی مودیه. خب الان چی به چه در چه اهمیتی داره هیچ سازم دا احمد خصوص. آن فرودگاه بود، فرودگاه مهمه رف اونجا آی مودی، مال ایشونه. مهم نیست باید بندر کل بندر حیفا نتانی داده به این این از بنبعی شروع می شد امارات عربستان سعودی اردن حیفا و پیراوس یونان دیگه قلب اینجا حیفا بود دست ایشونه حالا یه پهبادی می زنید تو حیفا کیا می زنید؟ مدیرم زده بودیم خبر نداشتیم مثلا یه رو داره میگه فهمید چی شد بعد او چی کار خواهد کرد 32 دو میلیارد دلار گروه آدانی مال ایشونه تخصصی روزه بنادر و فرودگاه کار میکنه و انتقال برق و های پاک جدید دو سه میلیارد دلار اشتباه نکنه فقط تو انرژی سبز و انرژی پاک سرمایه گذاری کرده برای جلو توجه اروپا گزارش بلومبرگ میگه که مگابندر ویژینجام در جنوب هند هند مسلسی این پایین پایینش میاد. اصلا شهرم نبوده یه روستایی بوده خیلی کوچیکه. سی درصد بار جهان از اونجا رد میشه یه مگابندر داره میزنه که بتونه تمام این کشتی های سنگین و قیص پیماها بتونه اونجا بیان بارگیری کنه بیست هزار تا کارمند داره که ارزش این مالی این شرکتش گروه آدان 230 میلیارد دلاره هفت و شرکت دیگه باز جدا دار اینا هلدینگ دیگه وقتی مودینو خس وزیر شد ایشون ثروتش این آقای کارآفرین 7 میلیارد دلار بود اون زمانی که تاپری شده بود 150 میلیارد دلار بعد بگو مودین نقش نداشت یه اصلا تو محاسباتون هست گزارش قربی میگن این آقای امبانی و آدانی جان دیویس راکفلر های ده های آخر قرن های 19 هم بیکن نجومی داره ثروتشون زیاد میشه مثل یه بحمس گوله برفی که بیل کرده از روی کوه. همه چی رو در چنده خودشون دارا بردن یعنی اول مثلا فقط توضیح راه بودن الان پیتروشیمی تا موبایل ها الان دست ایناست دیگه اصلا یعنی تأثیرات امنیتی بر هند دارن دستگاه امنیتی هند بخواد بدون شهروندانش دارن چیکار میکنن باید بینا روجوع بکنه زیر ساختهای اینترنت جدید فیبر نوری چه چه چه همه چی دسته ایناست الان پنجمین اقتصاد جهان هند تو سال 2022 جی پیش پی ش تو داخلش به ازای هر فرد که میار خوبی برای سنجش استانداردهای زندگی این جامعهش نگاه کنیم این همین این میشه 147 دنیا اقتصاد پنجمی توی معیار میشه 147 یعنی جی پیش پی به ازای هر فرد برای سنجش استانداردهای درست زندگی یعنی این آدانیه داره ثروتمند میشه <تص> بله اینترنت پر سرعت داده و یک باز رابطه جالب بین این بخش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماع هند می‌بینید. یعنی چی؟ هالیوودیا. ها. عشق می‌کنند 얘 اینا همش با اینا میچرخم با هم عکس دارن این خونه اونه، اون خونه اونه، این برا اون تبلیغ می‌کنه. این تبلیغ اینترنت و خط مخابراتی جی او رو می‌کنه. امین. هندی‌ها مش می‌کنن یه خوشایند. می‌بینین که اینا هندو هندوای جبرگرایی مضحک هم دارن که میگن ما اون روح قبلیه غلط توی کرده حالا تو این جسم واس ما حیق پغیر آفریده شدیم. به همین فقر خودت راضی باش دست دست با خطا نکش ان دفعه بعد میمیره تو بدن یه آدم پولداری. برای که این رفقا رفته بود گفتش که من دیدم ماشین مایه داره از خونش که اومد بیرون میگفتن بدبخت بیچاره رو ریختن دست میکشتن به لاستیکای ماشین. از اون گاوه خودشون می‌خواستن که, که دفعه بعد تو بدن این یا رو مثلا یکی مثل این ها میاد بندر رو در این قرار بود همین فرق نزدیک توی خط ساحلی هند نزدیک ده تا بندر داره آقای آدانی بندر رو دست اینه کالایی که از هند از طریقی که اینا میخوان حمل بکنن یعنی همین کوریدوری که دارن را میدازن و میخواستن را بنوزن که با هفت اکتبر هوا شد در کمتر از ده روز از بمبعی برسه به اروپا یعنی چل درصد سریتر از مسیر دریایی بابلمندب کانال سوئز. حالی خوردی پیچیده تر بشه ماجرا. یعنی اینا میخواستن بابلمندب دور بزنن ما تو تصمیماتی که میگیریم میتونیم از توان بسیاری از کشورها به نفع خودمون استفاده بکنیم میتونیم ناخواسته سرشاخ بشیم با بسیاری از کشورها بیان که متوجه بوده باشیم آقا روکش به شما بگم شما بخواه بریم با ماون نخست وزیر جلسه بزاری انقدر که با خود همین آدانی جلسه بذاری مهم نیست حالا همینا برید 1400 خودمون شمسی برید یه خبری رو چک کنید که گروه شرکت‌های بندرداری آدانی، پهلوگیری کشتی‌های ایرانی، پاکستانی و افغانستانی را ممنوع کرد در هند چرا؟ یه کشتی ایرانی از افغانستان بار آورده افغانستان اصلا دریا نداره یعنی بار از افغانستان اومده بوده خب که این کشتی برداره ببره بیاره مثلا سمت ایرانی کجا توش مواد مخدر بوده بهانه اینه دقیقا در اوج تحریم ها خب این تحریزیش کجا صورتی رفته تلاویف یعنی تو اسرائیل میگی دادشین حیفا مال تو میخوام تحریمای ایران یه حالی بهشون بده یه کاری کن شما تو هند نتونم بندربی آقا من نمیتونم چرا یه بحانه درست میکنیم یه کار امنیتی مواد مخدر رو قرار میدن درست شد بعد کشف میکنن جالب کلی هم بحث کردم مسئول بنادر و کشتیرانی ایران مصاحبه کرده بند خدا تو ما با هندی در حال گفتگو هستیم اصلا نمیدونه انگیزه پشت سر ما جرا کجاست را بفهمیم حالا یه چیز دیگه ما یه بندری خودمون داریم در اختیار هندی قرار میدیم بندر کجا شهی بشتی چاوهار سی میلیون دلار هم گفتن ما میدونه سرمایه گذاری میکنیم. یه تا بقیه‌اش یا 120 تا مثلا بقیه‌ش اینجوری. یه 120 اون وقت 250 حالا اون کجای این است؟ ربطی داره به این آدانی ها ندارد شرکت دیگری است. شرکت دیگر تابعه شرکت آدونی است. او چه انگیزه ای دارد از این ماجرا؟ آمریکا چرا اجازه داده است؟ شما ها... تحریم تحریم‌های آمریکا معاف باشید اینجا. کسی اینا دیدید چقدر گفتم جنایت اگه یه نفر خیانت اگه یه نفر بدون دونسته تحلیل بکنه دید مبالغه نبود کمم گفتم بره فوش میدادم خدا حالا این بندر حیفا که دست آدانیه چینیا چیکار کردند کردن؟ بله از طریق گروه SIPG یه سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش کانتینریه بندر حیفا کردن پس حالا یه پهباد میزنی یه دور هندو میزنی یه دورم چینو میزنی صرفا جهت اطلاع النا صرفا فعلا جهت اطلاع پیش بریم نباید بزنیم کسی رو نگفت نه اصرفم نیست اخیراً این گروه ها آدانی دارن بندر کلمبو در سریلانکا هم با جنوب هندو به دست میرن سه میلیون دلار هم از امریکا جذب سرمایه کردن برای اونجا چینیام یه بندر بغلش همسای بغلیشونو رفتن در اونجا قرداده 99 ساله بستن جنگ آقا هر جا هندیا داره سرمایه گذاری میکنن چینی ها میان جنگ رسما جنگه یعنی زمانی که شما در کنار چین و روسیه خودت داره تعریف میکنی بر مقابل غربیا پس بندر چابهار دادن چی چیه؟ الان من میگم بندر ها رو ندیم من حرفم نیستا من میگم قطعا نه شرقی نه غربی میگم میتونی بندر چاوها رو بنازی اما هیچ چشم داشتی اون 370 میلیون دلار نداشته باش چون برید سندش رو بخونید 2019 بود فکر کنم امریکا این قرارداد رو رسما اومد الا جلوتر براتون بخشش رو میخونم صرفا در راستای توسعه افغانستان تعریف شد این بندر چیزی جزو اون اطوش بزنه بیرون آمریکا گفته میزنم زیرش صرفا همین آقای آدانی چقدر به این از که انقدر که عزیزم برای پروازای نخست وزیر ها به ما شخصی خوش رو در اختیارش میزهر ما هم برو بیا با ماشین هم برو بیا با من برو اینجوری من ازدواجای بچه های اینا رو براتون نمیگم مهم نیست فقط بدون شیر تو شیره به خدا گیج میشه بعد بکشی خدا شاد خدا گواد جد نیم قسم دارم میخوام قشنگ باید بکشی عمرن نتونی رو کاغذ هم نمیفهم بعد رسم شکل باشه بین چی؟ بین مودی ها سهیونیست ها امبانیا و آدانی ها. اینا چجوری دارن تو هم ازدواج میکنن سود خالص نه ماه اول 2015ش آدانی اصلا بندر داری نوزده و میلیارد دلار بوده که به سال قبلش یعنی دوزار و میلیارد دلار تو یک سال افزایش درامت داشته بله یعنی دیگه اینقدر شرکت مرکت من اینا رو به یک جمعش کنیم با انقدر این ها هوشمندانه سعی کردن کار پیش ببرن با درگیریایی که در فلسطین اشغالی اتفاق افتاد سهام آدانی شروع که به ریزش اما تونستن آرام آرام مدیریت کنن مدیریت کنن تا اخیرن یعنی حتی تو درگیری ها سهامشون رشد داشته بذارید این که میاد قابل دسترس. را با شروع حملات پهبادی که حزب اسرائ... الله حیفا رو جزه اهداف اصلیشه هر روز تقریبا داره میزنه. یعنی آقا اگر میخواستی یه ضربهی به اینا بزنی که جمع کنن ماجره رو این بود. جوری میزدی حیفا کلن از مدار خارج. یرفت شد؟ این بود. یا میخوای اسرائیل رو بزنی؟ من نظر خودم رو میگم. خیلی حرف های خطرناکی دارم میزنم خود شد. من خودم میفهمم چه حرف خطرناکی بخش انرژی رژیم رو بزن چون او با ما به ازاش با مجبور میشه بخش چی بزنه تو رو انرژی نمیتونه یعنی میتونه بله خواهد موشک دیگه جارتش فکر مثلا پدافند یعنی مثلا چی یعنی توری که پشه ازش رد نشه حالت خوبه یه قویترین پدافند جهان رو در اسرائیل اینا مستقل کرده هر روز به عباده هزباله دارم چه چه لقه رو شهر میچن خوا نمی هر شب نمی چهل چه تو پناگان رو دنبال می گرده کجا بزنم نمی‌تونه نمی تونه بزنه اینا پدافندشون و آماده کردنن درست کردنن برای کجا برای معالب با این راکت ها پهپاد عقیمه همونج که پحباده شاهد ما بعد آرام آرام رو ها به یه روش هایی رسن که بتونن پهواده شاهد ما رو بزنه آخرین اسرائیلی‌ها سفری رفتن اوکراین که اون روشو آموزش ببینن بگن به چه روش شما می‌زنید هواپیما بلند میکردن دیگه هواپیما بلند کرده بودن باز مگه گیم... نیدید یکی از این پهپادها باعث شد یکی از هواپیماهای خودشون خورد اصلا پ... پدافند شما فقط یه دونه موشکم نبرد بشه نه اینجوری نیست رد میشه هیچ کس نمیتونم چه ادعایی بکنه موشکایی که مافوق صوت عمل میکنه. بالا چار پنج ماه سرعتشی که واقعا پدافن چیکار رو باید بکنه؟ پدافن, پدافن یه خدمتش رو مرز کنم جست و جوگر داره میفته دنبال موشک این حرارتش رو دنبال میکنه یعنی با سرعتش از این بیشتر باشه این یه مدل، یه مدلی دیگه است مثلا تخمیل میزن کجا میخواد بیاد این جلوش خیلی سخته اینجا جلوش در بیاد مثلا صحبت 4 پنج متر فاصله است بعضی‌ها میان باز مجاورتیش کردم مثلا تو رو می میتری که حالا ترکشا شو و فلان واسه حالا نمی‌خوام بحث پدافند وارد بشم یه دنیای برای خودشه منم خیلی سردر نمی‌ارم اما اینجوری نیست شما فکر کنید دیگه میگم قوی‌ترین پدافند جهان رو اونجا مستقر کردن موشاکو مثلا نگ نغل و تو عروسی بود هر روز یه فیلم جدید داره میاد بیرون دیگه این فیلمی که توی پدافند خودمون داره می‌زنیم باور صد افتادسه بودا آره داره میزنه اونا چون موشک های کو ارتفاعشون پایینن همین تا میخوان وارد ایام میشه همونجا جدا خاک عرااق میزنش. خب اون یه مدل حالا کوروزی مزایی داره ارتفاع پس پرواز میکنه رادار نمیگیردش اما خب زدنش شستوم ترره رهگیری شاصوم تره. هر کدوم می یه قص ای رو وارد بسته نظامش نمی اما در مجموعه اینو بدونید اینجورییسش که شما مثلا فکر کنید. هر کسی چی شده؟ نه اینطور نیست. بله یه 120 میلیون دلار اینجا نوشتم یه 150 میلیون دلاره که آی روحانی آی مودی و عشرف غنی رفتن برای بندر چابه هار خودم و تا الان چقدر پولش آورده سندش دسامبر 2019 پرونده چابه هار زیله پرونده توزه افغانستان تعریف میشه بندهای داره هرگز سپاه نبد اونجا وارد بشه بس سپاه وارد نشه یعنی چی؟ سیاه و تعریفش بعد اینا یکی از دلایلی که دوله اف‌ای‌تی‌فن برای چیه به خاطر همینه میخوان روی ارتباطات مالی داخلی ما هم مسلط بشن ما حتی از این بانک اون به با اون بانک اون پول میزنن فردا میگه آقا بسم الله از بانکه نمیدونم مثلا یه بانک متعلق به جر... مثلا به نظامی های موس پولی زده شده این قرارداد هوا در امریکا گفته هر لحظه من تشخیص بدم میذارنم زیرش که شما بتونن هندی ها بدون نیاز به پاکستان بتونن با افغانستان چی ارتباط داشته باشن یه هنده یه هند آمریکایی بهش میگه برو تو افغانستان صد بسست جون سیصد هیدروپلییک چون کوهستانی سرمنشه بسیاری از آبها و روتاهایی که به پاکستان ایران میاد افغانستانه. هند یا با پاکستانی ها جنگ دارن انگیزه دارن بین آمریکا چ رو انگیزه این رو سوار شده. انگیزه دارن که حال پا پاکستانیا رو بگیرن میان هی hey, اونجا چی میزنن؟ سد میسازن این ساعت ها داره پدر ما هم در میریم ما جدا در مشهد توی بسه آبش به مشکل خوردیم و خواهیم خورد اگه حل نشه اشرف غنی میگو می باید پول به نفت بدید آب بگیرید سخنرانی داره این بعد ما مثلا با موشک پاکستان میزنیم بعد اعلامم هم میکنیم زدیم مسئله بر پاکستانی ها میکنیم می کنیم هندی ها آمدن گفتن آفنیم به ایران کار خوبی کرده گروه تروریستی رو باید در مبدع منشع زد ما هم خوشحال اندازمون از امون میخواد م... مسئله پاکستانی ها نشه؟ حالا ما به عنوان رهبر و جبهه مقاومت چطور باید سلکت بکنیم از این فرصت ها و تهدید ها استفاده کنیم این دیگه به تصمیم گیران برمیگره اما باید وقوف داشته باشم بر این مسئله شما دیگه میگه آقا رئیس موساد بایدی که رئیس موساد خب با الانیش کار ندارم اصلا ما زمان یوسف کوهن یا یوسی کوهن اکسشون هست آیوسی سی تو قایق تفریحی با یک بادی لنگویج متواضعانه و خازانه در محضر جناب آقای توماس کاپلان حاضر شده اصلا توماس کاپلان کجای محاسب آتومنشون هست توماس کاپلان که همونی که بارها گفتم پشت جریان جاسوس های بود از یهودی های قفقازه به سالتن. کپلنگ یعنی پلنگ رو اسمش دنبال پلنگه نمیدونم اینجا که نسمه دنبال پلنگن بعد خدمت شما عرض بکنم که تو عراق هم دنبال یوسپلنگ بود تو ایران هم دنبال یوسپلنگ بود تو چین هم دنبال پلنگه تو عراق،, عراق یوسپلنگ داره میگه اصلا محصول محیط زیست عراق زن یهودی بود خط توی اون چیجوری چیدن تو کجا؟ این آقای توماس کاپلان یک کار دیگه هم کرد. اون دوره روحانی که تلاریختن تو بازار. ایشون با واسطه میخرید می برد بیرون. آدماشو تو عربیل مستقر کرده بود. ایشون یک کار دیگه هم کرد. عضو انجامن تحریم ایرانه. United against nuclear Iran. UAE. NI این اینجمن هر جا میگه ایران هستی هر جا تحریمی بلد برد به دور بزنه اینا بیرون میکشیدن با همین شبکه که تو توجار دارن روش و لو میده گرفتن میدادن به وزارت خذاان داره آمریکا گفتن جلوش بن. یعنی شما اصلا بیرون دولت ها جنگ شروع شده. تو تو دولت ها داری با این رو جواب میدی؟ دی حرف رو نمیتون میفهمید دیگه تمام بیرون دولت ها, با... ها. مثل در جمعکنین خیلی هم راحت تره خیلی راحتتر. این فقط یه قصه هندو به عنوان سر کوریدور آی مک به شما گفتم یا همین عرب میت این کوریدوری که جنوبی ماست وارد بحث کوریدوری چون نمیخوام بشم اون یه جلسه دیگه, دیگه قبلا هم صحبت کردم کوریدور شمالی هم که یه کوریدور میان شمالی ما یه کوریدور میانی معروفه کوریدور توران که از ترکیه تا غذاقستان اون هم جای خود فقط الان هم 20 کیلومتر زنگ زورش مونده. شما فکر کنین هم مثلا زمانی که آتا ترک شما به رزاخان گفته جون مادر این چند کیلومتر به من بدونم داده که ترکی با باید نخجهان وصله این هم داده رفته اون سال ها به فکر اینا بودن. 100 سال پیش. و فیم کنه مثلا این تررایط تر امروز دیروزه. <تصفح> این نتانی هم که 70 سال از منتظر شما بودیم. هفتاد سال زمینه فرام کردیم. برم تو ماجرا اوکراین. چون استگریم یه سگانه ایه. روسیه، ایران، چین. این سه تا باید کنترل بشن. وگرنه آمریکا تمام غربم تمام. هر کدوم هم یه جور باید طراحیش کرد. تو تل انداختشون هر کدوم یه مدل. روسیه درگیر ناتو با تو که اوکراین کردن. ایران، کشورهای سنی و عرب این که میام کشور سنی نه که من بخوام اسمش هستن ناتوی میگن خودشون و چین هم به زودی شروع میشه چین هوشمندانه و استادانه عقب بایستاده ما روسا و انداخته جلو داره نرم کار اقتصادی خودش انجام میده پیش میداره امریکایی اینو میدونن از غذا بزرگترین دشمن اول چینه بعد روسیه بعد ایران از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، روسیه، با فاصله کم، چین، بعد ایران از نظر ایدئولوژی، ایران، ایران، ایران اصلا اونات ایدئولوژی ندارن، چین هیچ خطری محسوب نمیشه مغالا حمله کردن صاف کردن اینجار تا بغداد رفتن چی ازشون مونده؟ هیچی، چون ایدئولوژی ندارن چین هیچ خطر ایدولوژیک نداره برای هیچ کشوری تو دنیا روسی هم همینه نمادشون همی رئیس هم رئیس جمهورهاشون مثلا پوتین چیه؟ دینش چیه هستن پوتین؟ نمیدونه یه نوعی از گرایی داره یه کسی مثل الکساندر دوگین بیخ گوشش هی داره در مورد محور شهر جهان چند قطبی روح شرقی دمیده شده در مسیحیت ارتدکسی روسی اگه چیزا داره میگه؟ ما با همین آیه الکساندر دوگی ایمیل بازی با همدیگه داریم. اما اونی که ایدئولوژی داره امروز ایدئولوژیک وایستده جلوغه فقط ماییم. از غذا خوبه بدونید. به همین دلیل چینیا بسیار نگران ما. و نگران هر گونه اثری از ایران و تشیع در چین ها. به شدت نگران از غذا خوبه بدونید بههایی در چین به شدت و عالم شبکه های اجتماعی چینی تقریبا در اخبار به ایران توسط به داره کنترل میشه. یعنی امریکاییها و انگلیسی ها اونجا دارن این کار رو انجام میدن. خیلی اونان گرانن ستا به هم نزدیک نشیم و روشهایی دارن خطایی دارن روی افتراق ها دکس دست میذان و کار میکنن. خب این تا اینجا، یعنی من بخش، یه خورده فقط هند آیمیکو برای شما توضیح دادم قیمت تو اوکراین ماجرا خیلی عجیب میشه چون این خورده توضیح دادم تو سخن چند وقتی گفتم خودم میخوام بازش کنم بردون خوب این حالت کل قصه اوکراین کل قصه اکران تصمیم یه شرکته شرکت بلک راک چرا؟ بله با سیاست های کلان غرب هم همراهه میفهمینو بلدن اما اونی که قرار پول در بیاره نون در بیاره از اون ماجرا اینه. خوبه بدونید ته ته ماجرا هم تا الان اینا نگفتن اما من به شما عرض می‌کنم ته ته ماجرا اسرائیل جدیده. اینا به اسرائیل دوم واقعا دارن فکر میکنن خوشنام فهمیدن آخرای کارشونه. کجا یکی از گزینه‌های جدی اوکراین برای کوچه اینا. دارم کنم می‌کنم برامونجا. از قبل بعد اوکراین برای اینا آماده‌شه. خب چیکار میخوام بکنم؟ ببینید ناتو هر چی گسترش پیدا بکنه، سلاحهای شرقی باید کنار گذاشته بشه، سلاحهای غربی باید خریده بشه. سر... یعنی مطابق با سازمان ناتو. این یعنی ملیارد ها میلیارد دلار باید بری از ناتو، از آمریکا، ناتو هم عمده تسهیلاتش آمریکا تولید تو می‌کنه. کشور دیگه نداریم با اون خیلی مهم باشه. این یک. دو هر چی به سمت روسیه پیش برن، اونجا چون کوه نداره، موانع طبیعی به این چیز. ما داریم اونا نداره. یک ای از دلایلی که هویت ما ایرانیا حفظ شده همین کوهستان بالامون کوه دریا پایین دریا بقیرامون کوه اون طرف هم کوه این زوزنقه وسط اون هویت ایرانی خوش حفظ کرد جایی که صاف بوده مثلا شمال ما از مجارستان تا خود چین هیچ نیست این گروه های قبائل کوچنشین میتاختن از آلت های میومدن میرفتن تا مجارستان از مجارستان میرفتن پنج هزار کیلومتر میومدن این میرفتن ای اید؟ اوکراین زمین های بسیار حاصل خیزی داره پرچمش هم دیدید دیگه در آسمان آبی و گلهای زرد خیلی آب داره آبی شیری داره. برف آب میشه پر رودخونه است. گفتم در موارد متعدد پیش میرد که قیمت گوشت گوستان از مرغ ارزونتره اونجا به خاطر که اصلا کاری نداره <تصفيق> گوستان پروری در مرز روسیه کنار دریا موقعیت استراتژیک نه غذای اروپا که غذای دنیا رو داره تامین میکنه همش کشا و چیکار کنیم آه اینجا رو گوش کن ببین چی بود یه بار خط داشته باش نظامی امنیتی سیاسی بگید اجتماعی فرهنگی از این ور شروع کرده بود نگاه کنید فرهنگی اجتماعی شروع کردن توی اوکراین رسید به جنگ رسید به جنگ دیگه آخرش. تنش سیاسی، یه دونه هنه زلنسکی میبینید چه تیپ آدمی آوردن؟ آدمی توزه فرنگی اجتماعی اثر گذار بوده قبلیه شون یادتون خانومه؟ مواشو خیلی قشنگ میبست؟ احسن توی ایرانم هم ندیدید؟ میگفتن چی میشه این؟ حامده اسمایلیون ازدواج کنه با کی؟ کی؟ نازنین بنیادی با چه شود؟ اهم گوری مگوری از این حرفا یا های چی شد اون طرف شروع که تو ماجرای زن زندگی آزادی اینا رو آوردن کنار هم و را همونه ده سال 15 سال بیس سال طول میکشه اومدن جلو گرجستان انقلاب رنگی کردن اومدن تو اکران انقلاب رنگی کردن اینا دیگه بیخه گوش روسیان روسیه حمله کرد و رو گرفت تو گرجستان. یه دیگه از گرژستان رو کند الان مجبور شد تو اکران بیاد گیر افتاد. همین کارو تو شمال ما دارن با جمهوری آذربایجان میکنن تو غرب ما با کردستان دارن میکنن همین دقیقا همین سیستمه فرنگ اشتماییه ماجرا الان سیاسیش امنیتی شده دیگه فرنگ اجتماعی رد کرده کسی سرم کار برای همین عنایت داشته باش پرچم امام حسین در جمهوری آذربایجان چیه خط قرمزه چون جنگ جنگ فرنگ اشتماییه بعد به اینا بگو آقا شماگه براتون تون مهم نیستی همچی کاری انجام بدید؟ دارن پرچم رو مسته نمی کشم نه نمی فهمن. روزی که شلیک بشه میگن آها حالا فهمیدیم چی شده صدا گلوله رو متوجه میشن اوکران برای همین به هم دخته. اما دیگه چی یکی زمین های اوکران حالا بریم چجور این ها رو صاحب شیم این چجور پول بدیم باید با یکی بیستانشون بزنیم هم زمین هاشون رو صاحب بشیم. هم کینه و دشمنی ابدی بین روزها و اکراینی ها که تا ست سال صاف نشه برادر کشی بینشون جا بیفته درست شد؟ فکر کرد اگه امام حسین نبود قصه ما عراق به این سادیا حل میشد ها اگه هر بین برای چی باش مشکل دارن تا صد سال این بابامو کش اون بابامو کشت از این قصه ها خواهد و امولا مرز ناتو آوردن چسبوندن بیخه گوشه روسیه بخشی از این حالا بعضیتون حالا مثلا جغرافیتون خوب نقشه بعضیتون برید نقشه رو باز کنید ببینید بشن سنس پیدا کنید. اصلا تا, عو... تا وسط های رومانی چیز نیست اصلا موانع طبیعی نیست کوهی نیست عملا و هم... اون الان اروپا رو میترسونن میگن ببینید اگر تو اکران پیروز بشه میاد تا رومانی کجای کاری میاد ما مسئله حیصیتی تمام هم نداره نباید این شکست بخوره نباید جنگ در گرفت اروپا دیگه از روسیه گاز نخر یه ضربه به روسیه زدم اروپا بیا از خود آمریکا گاز بخره وابستگی بیشتر اروپا دوباره به این طرف وابستگی امنیتی داره دیگه سراغ یورومورو این چرت و نمیری وابستگی به دلار بعد بیشتر باشه فکر نکنی میتونی منو دور بزنی اروپا اداره میشه توسط آمریکا آلمان اصلا اختیاری نداره از خودش آمریکایی میشه این کار صدر عظم. تو باید بود بود دو بریم و بود دو بر اونور چاپلوسی که آلمانیا برای صهیونیست‌ها میکنن به خاطر قصه هولوکاست تو دنیا کجا خود یهودی برای یهودی این کار رو شما استقبال چینی‌ها از صدر اعظم آلمان دیدید؟ هیچ جس نرفته بود خبرنگار خودشون اومده بود شخص میره اومد خیلی ناراحت بود کجای نیست میفهمن درگیرن با هم دیگه ما هم درگیریم و نمیدونیم کجاییم ما بفهمیم از این میتون استفاده کنیم درگیریم دیگه سال 1980 شرکت بلک راک میشه توسط آقای لارنس فینک لری فینک هم بهش میگه الان مدیر عامل اجرایی و رئیس هیئت مدیرش اون سال سه رو راه می نزن. با سوزان واگنر و رابرت کپیتو جسارتا اتفاقی کاملا هر ستاشون یهودیه کسی دیگرشون هم همینجا مثلا بلیک گروسمن، خدمت شما عرض بکنم این هم بازدواره یهودیه اصلا گروسمن ها که فامیلیشون یهودیه یعنی فامیلی های معروفه یهودیان. یه شرکت عظیم سرمایه گذاریه که 5 و 7 دهم تریلیون دلار، پنج هزار و میلیارد دلار بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات مالی در کل جهان برخی از منابع غیر رسمی سرمایه این شرکت رو دو دوازده تریلیون دلار اعلام کرن میگن جاهایی که جنگره که شما نمیتونید محاسبه کنید ببینید کشورا سود مالی تو دنیا ترمه مشخصه چقدره جنگ یه جا درست بشه جایی که را گیرت اومده دیگه ده برابر 20 برابر که هر یه دلار که خرج میکنیم پنجاه دلار برگرده ما خیلی جای قشنگ ما داریم جنگر هم میریم عراق هم میریم سوریه هم میریم ترکیه جا ما میره اونجا قرار نداریم خودمون یه هم یه دونه ایم. یونیک یونیک این رقب نجومی که گفتم بزرگترین بانک در سایه جهانه سرمایه در گردش هیچ بانکی در دنیا انقدر نیست انقدر این قدرت اثر که تو بحران مالی 2008 آمریکا وزارت خزانه داره آمریکا از بلک راک خواست بیاد مشاوره بده که مشکلات حل کنه از این شرکت خصوصی در چار هزار تا شرکت در دنیا سرمایه داره سهام داره 17 نفر عضو هیئت مدیره داره بسیار فنی انتخاب شدن حوزه های تخصصی مختلف کارم دستمون چند تا جهود سیونیست مثلا یکی مثل لری فینک این جور هست بشه لری فینک از اوناست که سخنرانی میکنه کمک مالی میکنه به اسرائیل این تابلو تابلو داراست تحلیل اقتصادی خوبی هم داره مثلا اخیرا این نفر به عضو هیئت مدیرهش اضافه شده کیه آقای حسن ناصر رئیس آرامکو نفت عربستان بزرگترین شرکت نفتی جهان رئیسش یکی از اعضای هیئت مدیر اونجا شد خب چرا اضافه شده؟ سوال حالا ما چقدر دقیق داریم با سعی می جنگیم؟ حالا چرا یمنی ها نباید انتقام اون هشت سال؟ خونی که ازشون ریخته شده رو با دادن یه حالی به آرامکو فقط آرامکو نه بلک راک نگیرن چرا یه ها یه حالی به حیفا نباید بدن مگر نه اینکه هندیها گوش کنید مگر نه اینکه هندیها هندی میخواهند از طریق امارات المندب رو دور بزنن و کوریدور جدید معرفی کنن اگر این کوریدور شکل بگیرد یمن حذف شده است یمنی ها برای منافع ملی هم نه عقیدتی که الان عقیدتیه هر کاری دارن میکنن ملی هم باید یه حال اساسی به حیفا بدهند کسی از این رو به یمنی بگه صدای میرسه به اینها متوجه شدید؟ چرا چین میاد پنج درصد سمام آرامکو رو میخره گفت من تا پنجاه درصدم هم میخوام بخرم اگه بدید خیلی عددش بزرگی ها اینو گفتم پنج درصد چرا چون نگرامون گفتم پنج درصد اینو شریکش میکنیم که چینی ها از طریق ایرانی ها یمنی ها رو کنترل کنن با آرامکو کاری با پنج درصد قصر سرطه اگر توی دب... ببین تو دل خاورمیانه تا نداریم یک سال جنگ قیمت نفت تغییر زیادی نکرده این فاجعه است این فاجعه است نبات فهمید چیکار دارید می‌کنی یا می‌گید مثلا مدیریت آمریکایی‌ها سری رفتن سراغ ونزوئلا گفتن چه تحریم اصلا بیا با هم مذاکره کنیم تو بازار خوبی هستی ونزوئلا که میدین دیگه ارزشش پولش بی ارزشتنی پول جهان شده بود تو خیابا می ریختن دیگه قیمت کاغذه بیشتر از خود اسکنوسه بود همجه صفر اضافه می کردن. تمام بود کار داشت خفه می‌شد دیگه سقوط کنه یا یا گفتن نه نه نه بیا نفت تو می خریم یا خودم بفروش اصلا کیه باید بگه چین تو باید ونزوئلا نفت بخری؟ نه امریکا از ونزوئلا بخره امریکا داره فروش و خرید نفت دشمنان خودش رو کانالیزه میکنه چینی ها آقای شی پین حد حداقل در سه تا اجلاس کوریدروی ترک ها سخنرانی کرده پذیرفته رو امریکا هایی میگن آفرین از ایران نه یا از طریق هندی ها از اون پایین میری یا از طریق چی؟ کوریدور میانی یا همین کریدور تورانی میری که من فردو خواستم ببندمش بتونم ببندمش ایران رو ببندم تو این اسکیل مذاکره با چینیا صورت گرفته نه دیگه اجلاس کریدوری جهان به که رئیس جمهور بفرستیم پلان بفرستیم شهردار تهران رفت. داد بفهمید چیه چین بزرگترین وارد کننده نفت عربستان بوده چین تا چند سال پیش بزرگترین عربستان بزرگترین فروشنده نفت هم بشود 17 برابر ما از عربستان بیشتر نفت میخرید آرام آرام الان شروع کرده الان اول روسیه است. بعد عربستانه بعد اراقه بعد مالزی حالا با بستنه با علمانده چه قصه برای چین داره چه قصه برای هند داره چه ماجرایی برای اروپا داره همین رو تحلیه اینا سیدستن رو زدن شما کیو میزنی در عوض دیدی چقدر گذینه ها زیاد شد بیا تو سا تحلیب اتونه بارو تا الان گزینه میتونی پیدا کنی خیلی محسر الان کی مهمتره بدنه شبکه یا سر شبکه؟ چه کسی باشته این جنگ بله یکی دسته یکی مقصد خب آمریکا تا الان یه ۱۳۰ میلیارد دلار یه ۲۴ میلیارد دلار باید نه خیران یه ۶ میلیارد دلار دیام کمک مالی به آکراین داده کارآورداد با سازی آکراین هم با همین بلک راک نمیشدن. اون کسی که این داره میده با واسطه بانکایی که وام دارن میدن مسئول امریکایی اومد گفت هیچ نگران نباشید ما همین رو داریم وام میدیم همه رو پس میگیریم از کجا میخواد بیاد پس بده چی باید سند بذاره وسیقه زمین های اوکران 100 ساله پونست شیسته ازاد کشته شد به خاک سیاه نشست تمام زیر ساختاش نابود شد تمام زیر ساختاش نابود شد. عوضش زلینسکی خوب پیانا میزنه بزرق, بزرق. اونجا هم دارن میرن مثلا حرف قشنگ قشنگ توی مملکت خود مثل قربی رو هستن یه قوقای این می نگرن به قوقای اون می نگرن گناهت این اصلا توی این قصه ها نیستن این از چیلی مگم برو با اینو شاء الله. خب بلکرک از طریق صندوق سند... سرمایه گذاری و ETF ها اومده سراغ اینا حالا این بلکرک صاحبه چی کجا سهام داره چون این داره بنده خدا یکیش اپله چه هم دلالله من نه تعرفش هم خب آره آیفون رو خدا آزاد کرد آمازون مایکروسافت فیسبوک گوگل از طریق شرکت مادرش الفابت جانسون و جانسون تو بخش بهداشت تو اینوس علا برای این شرکت ها... تو شرکت دیگه هم بودیم چار تا هشتی تو شرکت داره. من دارم من چند تا معروف هاشو دارم میگم فقط خون بفهمی چند چندن دونه دست که تو صندوق های سرمایه گذاری سه شرکت های بزرگ نظامی و اینا که تا دلت بخواد دفاعی اینا نورس رو یا بزرگترین شرکت تسلیحاتی و فضایی آمریکا. ریتون تکنولوژیز شرکت بزرگی در تأمین سامانه های دفاعی و تسلیحاتی همون بلک راکا تو آیفون اومده شروع کرد ها فیلن اینجاست لاکید مارتین بزرگترین تولی کنند تسلیحات نظامی در جهان یکی از محصولاتش F-35 یکی از محصولاتش F-16 فایتینگ فالکون ماهوار براه ماهواره ها همین سامانه تاد مان این جنرال داینامیکس شرکت بزرگ در زمه تولید تجهیزات نظامی فضایی فعالیت داره بخش هوایش و لاکیت مارتین خرید این از اون که خریده این انگوش رفته اون یکی انگوش اینجوری بگم هیچ مرانک بوینگ هواپیماسازی حوزه تولید تسلیحات سیستم‌های دفاعی به علاوه اینا ایشون خیلی علاقه جالبی گفتیم اکراین انبار غزه و غله جهانه در حوزه کشاورزی داره بله. و سموم و آفتکش ها و بزره ها و کودها ها تا صد کشاورزی از بزر تا زمینش که زمینش هم با همه جنگ اوکراین رفتن گفت اینا به اکراینی ها رحم نکردن یه مش اولاخت این مملکت فکر اینا به ما رحم میکنن یعنی واقعا نبینم تو مخ تو چی میگذره لام پونصد هزار تا کشته جوان نمونده تو اکراین تو خیال میدن زنا رو میگرن باید برید به جنگیت هرچی بیشتر روسیه بکشه تو اون تله نفرت بین دو ملت قرار خواهد گرفت میم میگه تا 100 سال جریانه امروز سال روز کشتاره نمیدونم فلا است امروز سال روز کشتاره به همان هست نه. یکی از این شرکت ها شرکت منسان توه. این از اصلی طریق بلک راکه تولید محصولات کشاوزی سموم فعالیته قبل از اینکه که بایر اینو بخره بایر اومد اینو خرید از دست بلک راک خارج شد خیر بلک راک ماه رو خم خریده این جیب به اون جیبه شرکت بعدی بایره الان با این اتفاق بزرگترین تولید کننده سموم و عماد کشاوزی در جهانه عماد شیمیه کشاوزی در جهانه دو شرکت بزرگ شیمیایی، محصولات کشاورزی و سموم کارگیل، شرکت اوزی کشاورزی تولید سم کشاورزی بلک در سهام داره. بلک راکس سهام داره. خب، مونسانتو رو یه خورده براتون باز کنم. کارش چیه؟ یک تولید بذرهای اصلاح ژنتیکی شده یا GMO. ترا روسیه مخالفه ترا ریخته بود. الان بیخ گوشش تو اوکراین خواهن کاشت، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از پیشگامان وزروی تراریخت است آزمایش های جن... آنچنانی دارن که بیا ببین تولید سمون و علفکش ها به ویژه علفکش رانداف مال ایناس و برای از بموردن علف های هر سفت تا صد کشاورزی مدل توضع بیوتکنولوژی کشاورزی در توسعه فناوره های نوین توضع کشاورزی استفاده فناوری های جنیتیکی برای بهبود مسئولات کشاورزی افزایش بهروری اینا کشاورزی دقیق. پرسیجن اگریکالچر ابزارهای فناورانه در مدیریت بهتر مزاره چقدر آب چقدر نور چه نوع خاکی که آب بشبدی چه محصولی تو این دما تو این میزان یووی خورشید. بحروری از دو دوتون به ستون افضای شاف اینا یکی از کارای کچولوه جناب تو. توه دوزاری جده گفتم بایر اینو خرید خود بایر به غیر از اونایی که گفتم یک طور داروسازی و بهداشت یکی از بزرگترین تولید کننده دارو و محصولات بهداشتی در جهان. شما تنوع رو می داروهای مختلف از جمله داروهای ضد دلتا هبی، ضد سرطان، محصولات بهداشتی مصرفی، صابون ما اونها. کشاورزی و بیوتکنولوژی. بذرای اصلاحی نجات شده. و و, و. کلا مونسانتو هم دیگه. و کلی چیزه که شاورزی دیگه وقتی ندارم تو اتفاقی که ششم و مهر ماه همون افتاد 28 سپتامبر نه تا درخواست کننده اصلی این قرارداد بازسازی و نکول وامهای های اوکراین بودن بلک راک برنده شد تمام ببین رو فروخته کشوره جده موضوع ناتو شد بشوند بازم سلاح خواهد فروخت زمیناشون هم که رفته گرفته کشاورزیش هم که قراره انجام بده دیگه انا به خدا از آب کره گرفتن وقتی میگن سهم نیست تا حرام زادن شما فکر مثلا شوخیه این لفظ کمشونه اگر در کل هستی تو که که کشان آن رومدام یا همچه حرام باشن نداریم اسرائیلی اینا زهور و بروز دادن چجوری بچه میکشند. اونا با سموم شیمیاییشون آدم میکشند. کشن هم در نمیاد. میاد مهندسی ژنتیک یک دانش بسیار پیش است الله و علم اینا چه ها که دارن انجام میدن؟ ما خبر ندیم چی به خورده ملت دارن میدن. دیدی که از دارو و واکسن و ماکسن بگیر اینا سهم دارن امروز که دیدی رسما آی اوباما چند روز بی شما سخنرانی کرد گفت باره ما واکسنا رو, رو تو دوران کرونا رو کل مردم دنیا تست زدیم و نکته آخر بر امروز بریکس آقا دلار رو درم که کنار ببینیم فلان شد یه خورده واقعیت هاشو بدونیم ببینیم چی بریکسی میدین که پنج تا کشور بودن دو رم جمع شدن بیش برزیل آرش روسیه آیش اندیا سی چین، اسشم سات آفریقا آفریقا جنوب اینا جمع شدن نبا کنید از برزیل، قاره آمریکا، قاره آفریقا بعد روسیه، اروپایی، آسیایی چین هم که در واقع ته آسیا و هندم که اون. از نظر جمعیتی تقریبا همین یه هم یه چین و هند بسته دیگه لا. <تصفح> چل تا پنج پن درصد در اقتصاد دنیا دستشونه هم. هر سال هم داره اضافه میشه این بریکس میخوام یه سری از کشوره ها خیلی مثلا سراغ بریزیل اصلا نمیرم. سراغ هندی خورده توضیح دادیم. بارده به بحثای اقتصادی هندم من نشدم. فقط لابی های و قدرت و خانواده سروتان در این دوی خورد توضیح دادم. اونم مرتبط با مودی فقط. چه وقت نمیشه اینا رو برست کنیم. دارای چین به دلار دو تا دو سه دهمه تریلیون دولاره. زخ از این میزان اوراق قرضه خزانه داری آمریکاش ۷ میلیارد دلار یعنی چینیا رفتن اوراق قرضه آمریکا یا خریتن تا دو سال پیش بالا یه تریلیون دلار بود چین آرام آرام داره اونو کم چینی که خودش دو سه تریلیون دلار دلار ذخیره ارزیشه دوست داره دلار بیاد پایین؟ ها؟ باریکرله یه خود با تله دلار صحبت کن شست درصد زخایر ارزی بانک های مرکزی کل جهان هم دولار، کشور خودو به چیه؟ به دلار. یعنی اگر دلار سقوط بکنه زخایر ارزی کشور ها مثل برف یکی چی؟ آب شده مثل یخی که آب شد و سرمایه هم که بیشترین قدرت نقشوندگی رو داره. یه سریع و راحت میشه. همچنین تقریبا تمام قراردادهای بازارهای کالایی از جمله قراردادهای نفتی هم با چی قیمت گذاری و تصفیح میشه؟ دلار. در حال حاضر مجموع تعهدات مالی یالات متحده به دهی یالات متحده به باقی جهان 53 تریلیون دلاره. آمریکا بزرگترین بدهکار به کل کره زمینه. بزرگترین بده. 50 هزار میلیارد دلار. این رقمان قابل مصرف نیسته. یه هم جی میگن. عدد واقعی از این به مراتب بیشتر. در چون این شرایطی کاهش ارزش و, و اهمیت دلار بدهی آمریکا را کم کنه کم میکنه. پایین اومدن قیمت دلار بدهی آمریکا رو کم میکنه دیگه از طرف دیگه دارای های خارجی گذاران آمریکایی یعنی سرم آمریکایی که خارج گذاری کردن 35 تریلیون دلاره اونجا 53 تریلیون دلار اینجا برعکسش که به طور کامل با ارزای خارجیه <تص> دیگه دلاری نیست با این شرایط چی میشه تورسی بدهکار خالص به کل جهانه اما کاهش ارزش پولش منجر به کاهش بدهیش میشه اما ارزش جهانی که تغییر میکنه که طلبش اون 35 تا آمریکایی سر جاشه بنابراین حتی مخالفان سلطه دلار نیز بیمینی دارن که نرخ برابری دلار پایین نیاد به این میگن تله دلار تراهی کردن سحمت کشیدن بابا اینکه میگن در مورد دجال داریم حالا خیلی میخوا بارد بحث چیز بشه یکی که کوهی از نان و نحری از آب رو در دست داره یا آب و نون مردم دستش تا آخر زمان و هر پیغمبر یه دجالی آنچکرایست داره که دجال پیغمبر آخر زمان قوی ترین دجال هاست سادر کننده چینی کالاشون که میدن پول به دلار دریافت میکنن خرجشون به چیه تو چین به یوان دلاره رو میان تبدیل میکنن. بانکشون میاد کار میکنه دلار ها رو برمیدارره میخره که دلار بالا نگه داره بر همین ظخارره ارزی دلاریش داره میره بالا. عوض بینا یوان میده یوانش تموم بشه چاپ میکنه. یعنی چین عمدن تمایل داره قیمت یوان از دلار کمتر باشه که کالای چینی نسبت به دلار، ارزانتر تمام شود دلار همیشه اضافه تو بازار رو خودش میخره یوان بهشون میده که قیمت رو پایین نگه داره حالا بریکس که 70 درصد اقتصاد بریکس یک نفره فقط چینه 30 درصد بقیه همین کشورا که میگه که اضافه تر میشه ایران هم اضافه شد امارات هم اضافه شد ها اتیوپیو اینا هم حوشمندانه انتخاب شدن فکر نکنی مثلا یه ایتیوپیوی رو چرا تو دست گذاشتی اون وسط؟ نه جغرافی ها رو داره لحاظ میکن تنوع میخواد بده پس ارز بریکس یه پیشفرزه این اینقدر ساده نیست که شما بگید یه عرضی رو آورد دولار رو بیرون خود چین همون اول میسه کجا دلار رو بریزید بیرون سه تریلیون دلار باد هوا میشه چی میگی تو داره آرام آرام کم میکنم یا بالا یه مبلغ بالای تریلیون دلار کشونده الان ورده رو سه 70 میلیارد دلار. خب. یه بانک توسعه جدید الان زدن که تا سقف 34 میلیارد دلار در سال مجوز تامین کالا و این چیزا میده. تامین مالی میده بخش. یه قرارداد اندوخته احتیاطی دارن درست کردن ازبک بیریس. معادلمون IMF صندوق جهانی دنیاست که الان بتونه کمکایی برشون انجام بده. یه نظام پرداخت بریکس دارن درست میکنن که قائم مقام بانک مرکزی روسیه تو مصاحبه گفت تنها موضوعی که ممکن است برای همه مادر بریکس جالب باشد بررسی و گفتگو در مورد امکان راه اندازی سیستمی است که بتواند به عنوان یک پشتیبان برای اعضای بریکس عمل کند میخوان یه معادل سویفت این اینور بسازن این خیلی مهمه این بسیار بسیار مهمه بین خودشون هم دلار رو دست کنار این هم خیلی خیلی مهمه منتها این کارو دارن جوری نرم انجام میدن که خودشون آسیب نبینه چین خیلی آسته آسته داره قدم بردار و اینجا تصمیم چین بسیار مهمه چون 70% درصدش دسته چی هست بله تو مناظره اول ترامپ و کاملا هریس ببینید ترامپ چی میگه میگه به به که به ریاست جمهوری برسم من تعرفه های 60 تا 100 درصدی بر واردات چین واردات چین اعمال خواهم کرد یعنی الان از نظر چینی ها آمدن ترامپ بسیار خطرناک بعد از نظر ما ایرانی ها بعد از نظر روس ها خوبه چون گفتم بی خیال اوکراین میشم ها میگم یعنی تو خود کشور او زبریکس هم همگرایی وجود ندارد یک جای منافعشون مقابل همه خب پوتین تو اجلاس کازان چی میگه میگه هدف کشورهای عضو بریکس کنار گذاشتن سیستم دلار محور سوئیفت نیست بلکه جلوگیری از تبدیل, س... تبدیل به سلاح کردن دلار است یعنی اینا هنوز جرئت نمیکنن محکم بگن میخوایم بذاریم کنار انقدر حیثیتین برای امریکا شما قذافی اومد گفت شما ما عرض آفریقایی داشته باشیم کله پاش کرن صدا اومد گفت ما عرض عربی داشته باشیم کله پاش کرن بعد ما اومدیم گفتیم آقا دولار بعد برای کنار پس چرا ما کله پانم کنم؟ دارن انجام میدن نمیتونن <تصحیح> نکن نکردن دیگه چقدر تحریم کنن دیگه چقدر درگیری درست کنن دیگه چه؟ دیگه نکن نتونستن نت نکردن نتونستن ایران دیگه عجیبه, واقعا. خیلی عجیبه خودش. آوریل سه رئیس جمهور برزیل آیه لولا دا سیلوا میگه چرا بانک بریکس ناتوانه یک ارز برای تضمین مالی روابط تجاری بین کشورها عضو داشته باشد امسال هم چیزی به صورت نمادین است که چیکار کرد پوتین یه جوری دستش گرفته بود انگار شواش بهش دادن دیدکسو راست انگار داشت میرخصید باش صاب مجلس بود بله آقای جوزف سالیوان مشاور ارشد سابق کاخ سفید تو مجل... مسابقه مجله امریکای فارین پالیسی داشته میگه ارزم مشترک بریگز چیز متفاوتی خواهد بود فکر نکنید ماننده یورست اعلام خطر کرده میگه چون همگی کشورهای عضو آن از رقبای نظام بین المللی ما هستند اروپا نیستش که با هم رفیقیم آلمان بزنیم چون سر کلهشو بلند نکنه انگلیسی با هم داداشیم نه همشون ما دشمنن در حال حاضر وزن این کشورها از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی نه تنها مجموعا بر هژمون حاکم یعنی ایالات متحده بلکه بر کل کشور گروه هفت در کنار هم برتری دارد میگه ما اعلام خطر میکنیم یه امکان دستیابی به سطحی از خودکفایی در تجارت بین را این کشورها دارند که تادی پولی منطقه اروپا یورو نداشت آرزوی آن را داشت دلیلش تنوع جغرافیایی میونه همه یه جان هم هم شبیه خود هم اینا تنوع جغرافیایی دارن تولیدات متفاوت دارن این نفت و گاز داره اون یکی نداره این یکی دسترسی داره اون یکی قدرت نظامی داره اینا کنار هم دیگه اگر شکل بگیره تمامه حالا شماجا آمریکا اجازه نخواهید داد شکل بگیره یک جریان هایی رو کنترل میکنید در درون کشورها که جریانات غربگرا به قدرت برسند نگاه به شرق نداشته باشه کنترول میکنی ارمنستان الان تو اون کوریدور شمالی بالا سرمایی یا کوریدور میانی بسیار کشور است پاشینیان آوردن سرکار پاشینیان پاشینی از این بهش بدیم بره هاست الان شاکیت دست ما من میخوام بدم این رو به آزرباجه ایران نمیذاره به تو جه تا الان رستا داد رفته یه یه بشه بدیم بره همینجوری اینا میدونستن دیر چیکار میکنیم؟ بین روسیه و ایران فاصله بعد بیفته از ترکیه اگر این تی که بشه از ترکیه تا قزاقستان این طرف هم افغانستان بله آمریکا هم احمق بود 80 میلیارد دلار اصل هر زره بره طالبان بره نه قرار بود جنگ جهانی اونجا بشه ایران مدیریت کرد قرار بود تماسن اردوغان به واسطه ازبکستان دونه دونه این تکفیری‌ها رو ادلب داشت می‌فرستاد اونجا ایرانم خیلی خوشگل با طالبان داهی میکشت اونجا. خیلی افغانستان قشنگ بازی کرده. من همش چقدر نقد کردم از اول جلسه. اینجا میگم همتون گم. طالبان و, و یعنی بخار این ج... جنگی که می‌خواستن درست کنن یعنی مسئولان طالبان توجیش شدن گفتم ها به جنگی 20 ساله دارن جنگی بدون تو رو می‌خوان بنوزن به جونه یه جنگ داخلی بر درست کنن اشرف اشرفغنیه... امریکایی اومده و رفته سراغ شیعیان میگو بیاید با همدیگه و طالبان به جنگیم اونجا ایران شعیان رو معنی کرد از مداخله چرا اگه شیعیان درگیر میشدن دیگه فاطمین شما لبه جولان نمیتونه سوایسته بعد برمیگش میرفت از فک و فامیلاش و تو افغانستان دفاع کنه تررایی تررایی تر و تمیزی بود خداوکیلی باید تیر 20 دا نشون این رو کرده بود بر همین در این تردید نشی دوباره میگم موزه مهاجرین افغانستانی تارگت ایناس امروز نه فردا نه فردا نه پس فردا ران خواهند کرد بنویسید دیگه فیلم دارید میگیرید اگر انجام ندادن باید مراقب بود باید نقششون رو برملاک یو یه فیلمی میاد دارن به ناموسی نفر تعرض میکنن دارن مگه چند تا گروه دستگیر نکردن تو لباس نیروی انتظامی و افغانستانی ها حمله میکردن ضررب شب قرار مین بعد دستیزن خودشون افغانستانیا پول گرفتن این کار رو انجام دهدن آقا پایگان نظامی داشت تو اونجا پایگانزن بگران سالن رفته به پایگان نظامیش برده مثلا ارتباطش قطع شده تو بسیار از این عملیات هایی که عل ایران داره استفاده استفادهن زبان فارسی بلدن از همین ها داره استفاده میشه کشورهای عضو بریکس ارز دیجیتال خاصی هم ندارن که نهایتا قطعا شک می‌گیرن چون اسکناس محکوم به نابودی است اصلا تردید نکنید خب اما اون خیلی مهمه و یوری اوشاکوف مشاور کرملین مارس 2024 بیس گفته ما باید یک سیستم پرداخت مفتنی بر بلاکچین به نام پلتفرم چند جانبه پرداخت بریکس بریج رواندازی کنیم رسیدن به این دیر یوزد انجام میشه مونتا چینی ها میخوان دامانشین آلوده به جنگ و منگ اینجوری مثل ما روسیه نشه بعد اینا رو کشید آورد وسط ماجرا آره حالا بعد هزینه بدن این نیست ما برای کشور خودمون برای عقیدمون برای چیزامون داریم جنگیم اما وقتی بخشی از پازل تر داریم قرار میگیریم چرا ازش استفاده نکنیم مگه حاج قاسم چیکار کرد بلش رفت روسیه پوتینو کشون وارد سوریه کرد همین الان تا ترکیه یا رفتن در ادلب که گروه تکفیری رو تجهیز کردن اینو پهباد بردن به شون پهباده اوکراینی دادن پهباده انتهاریه با اپراتور اوکراینی اومده راموزش میده شما خبرش نشیندی روس ها تو ادلب موازه تروریست ها رو بمباران کردن یعنی دقیقا نقطه زفی ما حوض پهپادی تو سوریه فوقلاده بودیم خیلی از این تکفیری ها اما اون کی هواپیما بلند کنه هواپیما های ناتو وایسته فلان کنه به همان کنه اینو بعدی یه کشور دیگه بود چطور از اینا بدی که که تو اوضاع هوایی هم ضعف داری هوایی معنی هواپیما الان سرمایه گذاری منم نگاه کردم چیا میگن میگن زودتر برید متنوع سازی گذاری ها با خرید دارای های غیر دلاری مانند اوراق قرضه صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک یا ETF همون صندوق های قابل معامله در بورس منظوررشش یه بچه مشترک که بین صندوق های سرمایهگذاری به سهامه به تیF بعد سرمایهگذاری در کالای مثل طلا نقره به خاطر حفاظت بکنید به خاطر ریس ارزی در بازارهای سرمایه سرما سهامیه کشور عو بریکس سرمایهگذاری جایگزین ارز دلار مثل املاک مستقلات میگن برید آرام آرام آماده بشی که دلار میخواد شروع کنه به سقوط این دور زود داره سوخت و سوز نداره این یورو نیست این کشور اروپایی نیستن که داداشیای امریکان اینا همین الان دارن تو میجنگن خیلی بعضی جنگ اقتصادی جنگ امنیتی یه کرونا یه نمونهش از این جنگ بیولوژیک بود که تو این درگیری چین بهتر مدیریتونس بکنه فهمید دست سینار خوند جنگی در رو مثلا اینو رو چی کار میکردن؟ کارخونه هایی که آمریکایی یا تولیداتشون تو چین بود و... یعنی کارخونه آمریکایی توی چینه مثل همین گوشه آیفون دیزاین این کالیفورنیا این چاین اینا رو به دلیل محدودیتی کورونایی نمیذاش کارخونه باز چیه همین چی شد چین اینجوری باز حالشون رو میگرفت جنگی در پس پرده بود. اونام برداشتن انقلاب کاغذهای سفید رو دارن هم همزمان با قصه مهسا امینی ما بود. تو چین راه انداختن کاغذ سفید می‌ریفتن بالا رو شورش کردن. اونام بیکار نیستن همین الان هالووین اخبارش دیدید یا نه؟ چین بگیر بگیر هر کی لباس هالووین تنش می‌کنه رو می‌گیره. فهمیده شروع این جنگ از فرنگ اجتماعیه. اینجا ما چی... اینو رو چجوری بفهمونیم؟ بیاد یه فیکت بکونیم بیرون ما چه جوری بفهمونیمشون چی به چه جوریه این مسئله فرهنگی جدیه بیش شما کسیم رهبرم هم که چند ساله دارم یا آقا خونه فرهنگی ناتوی فرهنگی جنگ نرم نمیدونم چی هم نمیفهمن یعنی شما فقط جریان ای ها رو کیپاپر ها رو در ایران رسد کنید تو تینیجر ها خصوصا دختر خانوم چه نفوذ فرهنگی پیدا کردن. بعد این شرق نیست این شرقی که فرهنگن غربیه رفته تو دیره چینچانکونگا برگشت اومده بعد تو کلا رادارات فقط چشمابی میگیردی رو به هم ازمون برو اون شرقیه بید کنار که کنا رادارم بشینه باش چای نبات هم میخوری این وره گرفتی چه جیری بگیم به امیر المومنین به قرآن قسم بالای دو ماه دارم به مسئولین امنیتی به یک کسی مسئولین مذبه دارم میگم به امیر المومن حرف هم گوشت کن حالا وایستا حالا فعلا میگم شیش هفت میلیون آدم درگیرن میمتوجه نمیگیره دیگه آموش بگوی یه نفره یه سیگاره دستشی گوشه میخواید بتره کنه مثل موشک میرزم بالا سرم چطم هستی که همینجوری آقا تو رو گرم تو رو برزا تباز تو آقا این خطرناک آقا این فلانه این به همانه اینا بچه های خودتن اینا جوونن اینا نوجوونن این دشمن نیست اینا نمیتونه موشک بزن تو کلش این دختر خودته این تو خونه خودتونه باشو نمیشه میگه دختر خواهر خودم هم مثلا از این گروه ها رو ایو. نه شوتن شوت، ش یعنی بعد سنسورا را بیاریم این طرف فعال بکنیم از کی رو جمهوری آذربایجان ما حرف میزنیم یادتونه چند سال خدا وکیلی دیدید چی شد نفیق با مثلا ما مثلا مرز داریم آزار بابا به چیز باشه که به... به ترک بازی و این قصه باشه ما باید اون طرفی بریم وایستیم که خودمون که اصلا <تصال> <تصال> عجیبه میگن دیگه الان کجا شما پیدا میکنید مثلا سفیر یک کشور آیا افشار سلیمانی سفیر ایران بوده رفته اونجا رفته برنامه تلویزیونی بعد علیتون رو نسف نشستم اونجا با یه هاچخانیم اونجا زواج کرده بوده بعد نشستم با هم دعوه مجری مجریم شده قاضی اون وسط میبینید دیویس هزار دلار پول من رو برداشته آد دو بیداد سفیر جمهوری اسلامی ایران کجا کاریم؟ این تحلیل این من من بگم باید برم دادگاه ایشون گفت به من ربطی نمید <تصفح> ببینیم مثلا این مثالی برای شما بزنم شما یکی از کسایی که مثلا با واسطه از ایران نفت میخریدن نفت میخریدن توی عربیل بود درسته؟ چرا فکر میکنید مثلا او میاد کوریدورها رو کانالیزه میکنه خرید نفت ما رو کانالیزه نکرده با چه واسطه این کار انجام میشه یه روزی خاص یهو شوک بد بده نفت نخره دیگه ببین توی ماجرای خریدایی که ما برای هستی انجام میدیم یا موشک انجام میدیم می میکردیم دشمن نمی مجل خرید رو بگیره رف رو کانال خرید سوار شد کالای آلوده داد که به وقتش دکمر رو بزنه در ماجره پیجر های حزب جو... الله نمونهش رو دیدید نگفت پیجرین نخره ما بودی میگفتیم نظر پیجر بخره گفت بزا بخره رفت سوار شد رو خرید من این خدمت این عزیزان این جانبازای این امراد بودن بیمارستان باشون صحبت کردم یه شب من تعریف کردم گفت من دیدم ر... یه صدای بوغ ممتدین داره می دیدین اینجوری نبود یه آلارم مخصوصی داشت میگه من دویدم رفتم اینو کمی برداشتم میگه دیدم بوش نمیشته خطا همجا بوق داره ممتیم. برای که درست بشه دکمه فلان و دکمه سمت راست رو را با هم بگیر فشار بدید اینو چرا گذاشته بود جفت دست با هم, هم درگیرشه بعد آوری جلو چشمش شترکید یه دستش کللا انگشت براش نمونده بود بند خدا یه دست انگوش یه چشم کامل نابینا شده و این چشمشم پر تکیه هایی ریزه بعد انقدر قط... قطعات پلاستیکش سفت بود که جمجمر شکاف داده بود جمجمر شکونده بود خب رفته رو اون کانال خ... سوار شده بعد این چیزی که اینجوری فکر میکنه خب روی کانال نفت ما نمیتونه سوار بشه بعد مثلا بازمیم آه ما چرا فقط به چین نبید کجا بفروژیم کدوم کانال کانال پیوره درسته روز فرد روزی نمیمندش بعد متنوع کنی این کانالای فروشو اصلا من نظر خودم میگم اصلا ما 99 بفروشیم ما اصلا نفت جمهوری آذربایجان ما باید می‌خریدیم ما باید اینا میدادن به ما ما از جنوب صادر می‌کردیم بعد می می‌کردیم همونطوری که بعد گاز ترکمنستانو میگرفتیم نفت ترکمنستانو میگرفتیم اینا رو میگرفتیم نفتو خودمون بعد مصرف ما تبدیل می‌شدیم به چی به هاب پتروشیمی محصولات پتروشیمی گازو صادر می‌کردیم چی کار باید میکردیم باید میومدیم کینو من... گفتم بهتون باید میومدیم میادین نفتی مشترکی که ما و عراقیا داریم ما و کویتیا داریم ما, را... ما و عربستانیا و هر کشور دیگهای داریم رو آوردیم. اقل می میفروختیم به چینیا به برزیلیا به آفریقای جنوبی به همین اعضای بریکس نه روسیه خودش داره یعنی چی یعنی 30 درصدشو میدادیم به اینا 70 درصدشو میدادیم به مردم خودمون میدان مشترکه دقت کن مشترک یعنی تو برنادری عراقیه برداشتت تو برنادری کویتیه برداشتت اینو میفروختی چی میوم از 30 درصد خودشو فعال بکنه برای اینکه خیالش راحت بشه 70 درصد شما مردم رو انداخته بود یهویی شما یه دارایی به مردمتون اضافه کرده بدون که خلق پول کرده باشید و تورم اضافه کنید دیگه این ببین یه لغمه رو جویدن تو دهنی ها رو گذاشتنه دیگه همین هم نمیدن دهنی بدشون <تصحیح> میگه دهنی بعدشون میاد <تصحیح> آقا جای دیگه لا لا. <تصحیح> حالا دوستان شاید بهتر متوجه شدید که چه کسایی را میشود زد در دنیا من دیگه نمیتونم از این وازه میگم حرفای خطرناکی زدم خب چه کسایی در دنیا هستن کیس آماده بنده خدا اثرش 20 برابر اوه کجا کجاها باید وارد شد یعنی ما بدونیم آقا اگر داریم حیفا رو میزنیم تو چه اندازه‌ای باید بزنیم اینا دوست خودم بخششو بزنیم یعنی مثلا چینیاتو بخش کانتینریش هم رفتن سرمایه‌گذاری کردن بزنی ساف هم کانتینر چی دداش تو چدوری می‌زنیم ما رفتم اونجا پولای ما رو چوری می‌زنی بدونید کدوم بخشه آوی بزنیم مثلا حیفا رو از رد خارج کنیم یا یه یوهویی میگه آقا میزنیم فوجیرا رو از رد خارج می‌کنم سب کن دداش کجا در 80 درصد واردات کالای خودمون از امارات آرام تامین ارزمون از آرام روسیه رو را یا برداشتن آوردن همین اماراتی ها 50 میلیارد دلار رفتن در ترکیه سرمایه گذاری کردن اماراتی ها همین چند وقت پیش رفتن رسول حکمه در مصر رو دریاه مدیترانه جنوب درنت رو میشه مصر 37 میلیارد دلار ناخاله سرمایه گذاری کردن رسما بندره رو خریدن مردم از خبر ندارن خریدن یکی تیکیه ممولیت این رو خریدن امارات من امروز به ذر سقااط میگم من کشوری به کنشگری دقیق و درست امارات توضه به نمله الان نمیشناسم بسیار دقیق بالا من روابط اماراتی ها با هندیار دیگه نگفتم. روابط اماراتی ها با اسرالیار دیگه نگفتم امارات رسما سرباز داره الان تو فلسطین دارن می یه حزب اسلام ترکیه رو هم زدم دیگه داره میگه حداقل چهار هزار نفر سرباز ترکیه دارن توی فلسطین می جنگ بر اسرائیل اینا دو های دو تابعیت های ترکیه اسرائیلی که این رهبر این حزبشون اومده گفته بود که بیاید اینا رو سل و تابعیت کنیم از ترکیه آقای علمرد آقای علمرد 2006 میگه این کشورهای عربی بودن خرج جنگم به ما دادن جنگ سه روزه رو گفتن فقط بزنید تموم کنید لبنانو اخیرا این کتاب وار که اومده بیرون اونم باز روز توییت زدم اهمش شو براتون گذاشتم این کتاب داغ داغه هنوه تو تنور در اومده خدمت شما عرض بکنم سفرهای بلینکن از ماه اکتبر. از تقریبا یه افت شیش افت روز بعد از هفته اکتبر شروع شده از اسرائیل شروع میکنه میاد میره عربستان، بحرین، امارات چی چی تا مصر آخرش از اون برمیگرده این یه بخشی از کتاب ایناها در مورد اکراین هم داره چیه دیگه هم داره خب اونش هم جالبه حالا وقت کنم اونا رو خلاصه میکنم براتون میذارم اونجا هم خیلی جالب نوشته که چی میگه ما رفتیم اونجا گفت آها فقط بزن پدر اینارو در بیار ما تابلو نمیتونی نمیتونیم بگیم میگه پادشاه اردن گفت رفتم یه عربستان میگه گفت به خیالتونم راحت با خاک کیسان کن اونجا یک دلار خرج ما نخواهیم کرد دیگه. یک دلار خرج نخواهیم کرد اماراتی گفتن عالی اصلا هیچی نذارید از اینو ببونید دیگه میریم مصر میگه تو مصر تعجب کرده بودیم تمام نقشه تونلا رو همه چی رو عباس کامل رئیس اطلاعات مصر بمون بموند گفتینم تونلاشونو بگو این جار بزنن نقشه تونلاشونه که بعد این مجبوشه این عباس کاملا رو عوضش کنن دیگه گندش در رم. بعد که برگشت گفت فقط به چیز بگید به نتانیا او اینا اماراتی ها گفتدن بذارید ما یه سری کمک های بشر دوستن در حد دیدید توت آب این چیزها بدیم کفن دیدید تون کفن میفرستدن دیگه کفن میفرستدن بهشون بدیم یه زایست بلان نیتانیو گفت نه خیر ما این را هم نمیم پذیریم بعد کمک های بشر اماراتی الان در ترکیه دیگه مه رو شکندن وسطش جی پی ایس در اومده شونو جی پی امارات سنی برای شیعه لبنانی مه فرستده بشین نماز بخون یه محموله هزار تایی دیگه مهر گوش کنید اینش باز عجب هزار هزارتایی دیگه مهر لو رفت این محموله دیگه که به واسطه یه سوری از قبرس وارد کرده بودن که توی مهرا مواد انفجاری داشته جز چیه که مهر استفاده میکنه یعنی قشن میخواستن شست هزار نفر را اتشاد کنن حالا خداوکیلی این واسطاد انجلوینا دیدید قدش چقدیه؟ چه عجیبیش بینید چقدر عجیبه فهمید چرا هیلار کلینتون وقتی داره میره میگن مسئلت چیه و فلا میگه ایران ایران ایران, ایران. از نتانیو ها میپرسن میگه همین ایران آره ما میره چه ما اصلایی که اون برای بهم زدن برنامه اینا خلق شده دینه ایمون اینه آره دیگه همینه اصلا تو اصلا امام حسین داشته باشی برنامه اینا رو میرزی به این دیگه برای چی میگه پرچم امام احمق خب احمق مثلا بخواد میگه خدای مدار بش 80 درصد جمعیت جمهوری آذربایجان شیعهن پس یه پرچم بالا بیاره لاغلمی یه نه نمیارزه این خیلی این حسین خیلی خطرناک هر جا پاشواز شده موتور ما اومده پایین قرار بود کل این کشور رو اعلام کنن اسرائیل به رسمیت بشناسن روابط حسن هست به هیچ کس هم نداره آغاشون اسرائیل سیادت اسرائیل هم قرار بود بپذیرن این که همدانی مصاحبه کرد این هم دیروز رو زدن با الجزیره گذاشته بود اینا مهم ماهی این تویته که میزنن بخوا بخشه این تیکای پازلیه اونجا چی میگه میگه ما دیدیم تا آخر عمر باید سیادت اسرائیل رو بپذیریم دیدیم ما نمیتونیم و شب عملیات 7 اکتبر همه رو جمع میکنن 1400 نفر نیرو جمع می‌کنن بعد برمیگردن بهش میگم میگه هر کی میخواد برگرده بری بیرون بره یک نفر بیرون نرفت بین قصه با چقدر حسینیه یعنی اونجاش هم که با سنیه ماجر ما حسینیه قه ماسیینه اون خوب بپذیر میکنن پس اصلا هم من ایدولوژیک نکنه میکنم این ایدولوژیک نگاه نمی میکنم برای من مسئله ایدولوژیک ها اما کاملا گفتم می رو تحلیل بکنن فر هر چهار نفت اونوری هم نشستن گوش کردن بگن منافع میلیون کووشش و حخوان شید بشنینناقال کن آره اگه میخوای بری تا مدیترانه قصهش اینه بعد شما مثلا عراق رو گرفتیم نگاه کن گرفتیم که محور مقاومت بعد سوریه بعد مدیترانه این قشنگ کریدور شرقی به غربی داره درست میشه طالبان هم اینجا درستش کی پینو داره درست میکنه تو دل این دعوا ها ببینید چین افغانستان ایران عراق سوریه مدیترانه خب اینجا چند تا مشکل است آمریکا اس قهر بر بری بیرون خب بر بیرون اسرائیل هم باید نابود شه باید بشه یه قصه این طرف داره پیش میره برای چی سر بوکمال قائم مرض بوکمال قائم لب مرز عراق و سوریه است آمریکایی‌ها بر همون جایی که حججی رو سربوریدن همونجاست بارها آمریکا خودش حمله کرده برای چی میگین کریدور زمینی برقرار شده به مراتب این کریدور شرقی غربی مهمتره به مراتب شرقی غربی مهم به مراتب چین سادر کنند اصلی هست جنوب به شما کی میخوای به روسیه چی میخوای صادر کنی بله بیا تو ایران تو بند چابه هم را بنداز اما نه برای افغانستان فقط افغانستان هم بیا در طریق تو بره آره خوبه اون که محصور به دریا راه نداره و دنبال اینه که چون طالبان اومده سرکان طالبان پاکستانی ریشش اما دوست نداره وابستگی دائم به ارتش پاکستان داشته بشه دنبال یه رقیب میگرده برای پاکستان از تو ایران را اشکالی نداره البته فکر نکنید پاکستان بیکار میشینه این گروه های تروریستی رو حمایت میکنه هر روز بنزیره یه راه و ریلی و همیشه کاری بکنه برای کنترل او هم تو باید هندی ها جوری پیش بری که بتونی اینا موازنه برقرار کنی اینا پیچی است باید نگاه کنیم مثلا اینا اصلا فرادولتی اصلا دولت ها عوض میشه اینا زرهی درش تردید نه دو حالی مثال براتون مثلا روسیه از شمال اگر ما یه راهنی منو درست بکنیم 7000 هزار کلومتر نزدیکتر میشه به هند هندیا ها از روسیه زورالسنگ وارد میکنن هفت هزار کیلومتر. میتونه به از ایران بیاد بیاده چه بره خب ما چقدر این اینجا میدید یک مسئولی در کشور ما گوش کنید یه مسئولی تو کشور ما یه نگاه فنی داشت به این ماجرا. میگه مثلا این پله میریزه درست هم بود این حرف شادیه جاهایی و خیلی مثلا قبول ندارم به فرض درست بود اما این زرر منفیه 20 یه مثبت 180 اونور بود 160 میخواست بمونه اونو نمیدید چرا؟ چون نگاهش لوکاله. یه کسی باید باشه فراملی نگاه بکنه یه کسی باید باشه کلان نگر باشه مثلا مجلس تو همین مجلس انقلابی دو میلیارد دلار میخواستن از پول نفتی که ما داشتیم از بیرون بگیریم می‌خواستن بزن تو اوج یه نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نژوش گفت چه خبره 2 میلیارد دارم خرج کنم کاره واجبت تر دارید احتمالاً معین لهنم گفت الان حرف بزنی قسمش حرف نزنی والا ما یه جای وظیفه شرعیه تو بیار بگی هی hey, میگی اینه کار خوشون میکنن وقتی مردم بدونن من تو هم نگفتم و من با باید با تک تک اینا دیتیل دارم یعنی تو جمهوری آزرباجان صدها ساعت حرف هست چه کسایی چه جوری چه کار کردن کدوم شرکت ها مهربان علیف خاویار با هم خوابی ها بعد می مدن اینجا چی می گفتن نفوس کردیم توی شون نداشت رفت آب بیاره دیدم آب قلام رو برد قلام رو برد حسن رو برام رو حالا حالا با جمهوری آزرباجان چقدر پیش بری؟ تبدیلش کنی به اوکراین جدیدت؟ اشتباه چجوری باید مدیریتش کرد؟ پیچی است حالا نگاه کنید ببینید رهبر این مملکت با همین بزاعت با همین اقتصاد با این دنیا این کار رو باید پیش برن بعد تو خانواده چهار نفره میخوای بری شمال بین بچه هات سر که شیشه بالا باشه یا پایین جنگ جهانیه تو همین رو درست کن تو خونه خودتون بین شبکه پویا و تو میخوای نصلا اخبار گوش کنی جنگ جهانیه بچه خودتو نمیتونه انا پرگیرن این شبکه ایران پویا دیگه حتی اصلا بچه ها و میلیون رنگ و بارنگ گولی مگولی داری یکی تا نگیره نگیر آروم نمیگی گیره. یه داری تا از اون که میگه واکسن جی اس کردن تو خونتون داری اونی که در به در دنبالی اونی که واکسن علو آمریکایی علو مریخی فقط بزن میره ارمنستان واکسن بزنه داری همه اینا هم ایرانی ان کنار هم میگن نسبت به همه اینا تعهد داری نسبت به همه اینا یکیشون یه خورده اینجوری خروشون خلاصه بازار شامی رو باید مدیریت کنی خیلی سخته صبوری میخواد پدری کردن میخواد بخشش میخواد آه. محمد و محمد و نه فقط این، و نه فقط این، این بیرون عراقیا رو باید حواست باشه، لبنان رو باید حواست باشه، اون فلسطینیا رو حواست باشه. یمنی که 8 سال محاصره بود، بهترین وقت زدن عربستان بود، اما تو میگی خب الان این محاصره باید بشکنه، اینا باید نفس بکشن، یه چیزی بیاد بهشون برسه. ببین، آخرتی بعد تازه معتقد به آخرتی؟ آخرتی آخرتی هست آدمی نمیشه خیلی پیچیده است موضوع. درست شد بعد تا از اون چیزی که ما میفهمیم ببینید چقدر مطالب هست ما اصلا خبر نداریم روهمون هم خبر نداره من چیزو باز نکر. من فقط دو تا شرکت برای شما باز کرد یعنی سهیونیست ها چجوری دارن از آب کره میگیرن بعد اینا برای بزرگترین دشمن اسرائیل یعنی ایران برنامه ندارن اصلا نفوزی هم ندارن مطلقا براش اصلا مهم نیستش که چه کسی به قدرت میرسه طبیعی اصلا با. ببخشید ما سر شمار درد و امیدوارم مفید و فایده بوده باشه جلسات بعدی دیگه از این چیز سی اقتصادی سی در می خود آخر و زمانی تر میشه انشاءالله به شرط حیات یا علی